می‌کنم به همه شنونواهای عزیز پادکست فوتبالم. ما توی این پادکست فوتبالی هر هفته لیگ‌های معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر خود خودمون می‌بریم و اتفاقاتشون رو تحلیل می‌کنیم. بریم سراغ اپیزود 6 طبق معمول هم که از انگلستان شروع میکنیم و طبق معمول میدیم ساندشراک این لیگو بشنویم میخوام می خواهم بازی لیویپول ساعت همتون شروع کنیم که لیورپول سه هیچ برد نکات جذاب این بازی ایکیش این بود که محمد سلا تا رو به روزای خوبش بر میگرده. خیلی تو بازی فعال بود خیلی حرکت انجام می داد. خیلی شانس های گلزنی ایجاد می کرد یه نکته دیگه هم این بود که این خیلی اعتماد به نفسش رفته بالا ای پشتر رو هم کلینشیت میکنه. توپا رو در میاره خیلی خونسرد دروازبانی میکنه کنه. من یاده زمان اوج اشمایکل می این هفته که داره میاد با چلسی موریدزی و ساری بازی دارن. باید ببینیم میتونه این پرفیکت استارت خودش رو حفظ کنه لیورپول یا نه. شش بازی اولشون رو بردن ولی خب خیلی کار سختی جلو چلسی دارن و باید ببینیم چجوری میشه. این شش شیشتاوازیی که بردن پشتر هم برای اولین بار تو تاریخشون که این اتفاق میفته تو لیگ برتر خیلی عجیبه بره باشگاهی که به این بزرگی با این قدمت اولین بارش باشه که همچین روند بردی رو تجربه میکنه خیلی العاده است من از یعنی حتی یونایتد فرگرستن این کارو نکرده بود والا یه آماری بود تیمایی که پشتر هم برد بورد داشتن توی لیگ برتر رو گذاشته بود. و لیورپول خب دفعه اولش بود های دیگه اکثران یه سریشون قهرمان شدن و قهرمانای خاطرانگیزی هم بودن تو لیگ برتر مثل اون چلسی مورینیو تو دوره اولش یا حتی یکیش خب بیشترین برد آورده بود هشت تا برد بود که سیتی پپ بود که اون سال خب بعدش افول کردن و سوم شدن مال اون سال بود که اولش گلزنک شروع کردن فکر کردن همه چی خوبه بعد این سیتی معلوم شد که اونقد جون ندارن تا آخر فصل خوب برن ولی به صورت کلی نظر من راجع به این قضیه اینه که یک باید در نظر بگیریم که خب هنوز لیورپول میگه اینشالله شاءالله فصل بعد چون هنوز تا نیم فصل خیلی مونده بعد سؤالی که بر من ایجاد میشه اینه که خب آخر فصل الان جرارد نیست کی قراره لیز بخوره فکر کنم هندرسون بهش میخوره هم خیلی راه رو مسخره میکرد میگفت مثل اردک را میره این دوستی که الان هر صد مهمون برنامه‌مونه من معرفیش نکردم اوایل نبود یه ها الان اومد اینجا نشست حرف زد خیلی کاراکتر جالبی شما طرفتار کدوم تیمی؟ من آبردین اسکاتلند حالا چرا کاغذ نگاه میکنی؟ چون هنوز حفظ نشدم حقیقتا چه طرفتاری؟ تو کجا بازی میکنم؟ اسکاتلند آه اسکاتلند اسکات. خیلی خوب بریم سر ادامه داستان یه نکته جالب الان بیشتر واسه خودم جالبه نه واسه شما فصل پیش من داشتم بازی ها رو نگاه میکردم بعد هری مگوایر رو از نیم فصل استعدادیابی کرده بودم واسه منچستر یونایتد هی میگفتم اینو بخریم چه همه جو هاش رو به طرفدارا نشون میدادم چند بار اومدم به مورینیو تو اینستا مسیج دادم به فردینان مسیج دادم گفتم یکی برسونه به سرانه باشگاه که هریو بخریم که خوب این اتفاق آخرش نیفتاد الان یه دفاع دیگه استراجابی کردم این آقای وسترگارد هست توی ساعت همتون دانمارکیه بچه محله اشمان کردیناست قد یک و نود نو کیلو آدم دیگه یه مدافع چی میخواد؟ من همینو میخوام اگه مسئولین گوش بکنم برافای من ممنون میشم سورتش چی اون وقت تو تیلیپ مرتساکیر که نیست؟ یه ذره پایین تر از اونه یعنی کمتر؟ پایین تر؟ آره ولی 26 سالشه حالا فکر کنم همین سرعت رو بخواد حفظ کنه اوکیه ببینیم ما الان داریم از سرعت اسمالینگو اینا صحبت میکنیم به نظرم بد نیست اسمالینگی سریه؟ سریعش اونه حالا آماره فکر کنم سرعت سبت میکنن خوب و شاید تو بازی هوش نداره که سرعت بگیره ولی سرعت که بتونه بودوش خوبه نه این هوشش اوکیه یعنی جایگیریاش مناسبه من الان یه مشکلی دارم شما جون جون اسمالینگ و یه میمون نشسته داره سنج میزنه و الان دارین راجب هوشش صحبت میکنید راست میگه دیگه چیکارش کنیم بریم سراغ بازی بعدی بازی چلسی و چکشا پرفکت استارت و ساری خراب شد این هفته اومدن با وستهم مساوی کردند آخر بازی ساری انقدر عصبانی بود، اون مصاحبه رو من داشتم نگاه میکردم، قشنگ چشاش قرمز بود، عرق کرده بود، داشت میلرزید، مشخص نسخه میخواد بره سیگار بکشه بعد بعد بازی هم تو تونل خفتش کرده بودن، حرف بزنه خود، چرا ول نمیکنم، بذاری بره بکشه بیاد بعد صحبت میکنیم دیگه حالا این رو که گفتی، این بازی قشنگ، این مراتایه داره تبدیل میشه به فرنانتو تورس سانی چلسی یکی یه مثال خوبی میزد یه کارشناسی میگفت من موقعی که چلسی تورس و تازه خریده بود من چند بار اونجا بودم میگفتش که اینا طرفدارا قشنگ هر وقت تو پای این میرسید قشنگ میشدن میخندیدم میگفتم بازی اومد و این داستانه الان مراتا داره اون شکلی میشه کم کم اعتماد به نفسش داغونه یه هم که نسبتا خوب زده بود خرد صورت دروازمان نتونست بان دیگه هم داره دیگه علاوه بر گل نمیکنه جلوی گل وای میشه آره آره بعد من یه مشکل دارم شما که دون این حرفو میزنی حداقل پاس گل به تیم حریف نمیده مشخص بود لوکاکو رو گفتم یا نه لوکاکو اصلاح شد دیگه آه حل حالا ساری توی اون مسابقه میگفتش که ما باید توپو سریعتر به گردش در من یادم استاد لوئیس فان خال انداخت که اونم میگفت توپو باید زیاد به گردش در بیاریم ولی خب گردش توپ این کجا گردش توپ فان خال کجا حالا این نمیدونم واقعا این حرفو از گفته یا نه چون مثلا 180 بار وقتی توب به جورجینیو میرسه خب طبیعتا اون میلشون بیشتر به عقب بوده تا جلو همین این, این یه ریکردی بوده که از سال 2003 که این ابتاداره داره هم میکنه که بعید میدونم قبل از اونم هم کسی همچین تعداد پاسی داده باشه بی سابقه همچین تعداد پاسی آخه چه فایده پاس هرز بدی و به جایم نرسی به قول سرحنی علیفر این به آن آن به این که چه؟ <laughs> <تصفيق> جالب نیست به نظرم اینکه میان آمار پاسکاری زیاد و بولد میکنن حالا در ادامه میرسیم به یه سری بازیی دیگه که اصلا آمار به یه تیمیه ولی راحت میبره حالا توی این بازی هم شانسش بیشتر بود برای برد مثلا یک دو تا موقعیت خیلی جدی بود که خراب کردن کهش آنتونیو بود با اون یار مولنکو یار ملکو رو که گفتم توی دوردمون چه سرطانی بود اینجا هم داره کم کم خودشو نشون میده و بعضی بازیکنا تو یه کشور جا نمیافتن. اونون میشه پای اون گذاشت توی ورستام فعلا قابل قبول بازی کرد. البته اینکه آناتویچ هم نبود خیلی بهشون ضربه زد. اگه بود شاید راحت چلسیو می‌بردن. آره بالاداش قشنگ جوایگاه نشونش هم داد یه بار داشت هرس می‌کرد که مع الان اینجا بودم اینو زده بودم. آره خلاصه. بازی بعدی سیتی بود با کاردیف. منتهی سیتی این که راحت برد. یه نکته‌ای داشت که تو دقیقه 30 خیلی هم راحت نبود. داستان اینجاست که این دفاع کاردیف مثل یه کمربند پوسیده یا مثل یه کش شلوار است. یه چند دقیقه نگرت می‌داره، بعد دیگه میاد پایین و دوستان راحت استفادهش نو من میخوام ببینم ندیدیم مگه بازیو نه سرم شلو بود آبردین بازی داشت آبردین با کی بازی داشت همه چیه که بهتون نمیگم که تو لیگ خودتون صحبت کنیم چیکار کار لیگ ما داریم خب الان میریم. 2 set سیتی با کار so uh, Gundogan, City with Cardiff we're wonderful... He does have his first Manchester City goal. Riyad Mahrez couldn't really miss that one. He was on the end of it as Manchester City serve up what is rapidly becoming another masterclass. There are four in front. Cut down by Sane. Good options either side. Finds Raheem Sterling. And Ekwell Manga was strong, only to give it away again to Riyad Mahrez to make it five. Masterful for Manchester City. خب آقای چی بود اسمت؟ جنم شنیدی دیگه گلارو؟ رو آره بیا به بازی بود آره سیتی تو این بازی پنج تا گل زد من داشتم میشموردم شش تا دیگه هم نزد یعنی بالا یا بدچانسی آوردن یا این که بالاخره آخر خوب نبود و اینها ریاض معارضم که برای اولین بار واسه سیتی گل زد بعد میخواست مکم کار کنه دوتا هم زد حالا یه چیزی که منو این بازی وحشت زده کرد این بود که آرسنال چی جوری دوتا از اینا خورد بس کردیم دیگه دفاعی آرسنال جلوه میدونستم بدن ولی که اینقدر یاد یکی برنامه های نوت میفتم که یه دوستی میگفتش که ما میدونیم دفاعی آرسنال بده ولی نه اینجوری <تصفيق> ماله کی بودیم؟ نمیدونم نه اینه اون زمانی بود که آیا فیروسی میخند <تصفيق> اما تو شهر منچستر بمونیم یونایتد با وولفر همتون بازی کرد. امسال حالت زیاد در اونجا بمونیم. <تصفيق> آره زیاد چون بیبتون... واقعا نمیدانم سیستم تیم چی جیبیه. سیرک شده. سیرکمون یه تماشاچی ویژم داشت. سر الکس فرگوسن بالاخره بعد از اون عمل جراحی مغزش و اینها تونست به شرایط نگاه کردن بازی تو استادیوم برسه؟ البته فعلا. آره، چون ممکنه زیاتر حرص بخوره، دوباره دوباره مشکل آره، بشه. با این تیم یه عمل کلی لازم داره، چیه؟ آه دور از جون. بره. غیرتی اما. چرا؟ قبلا مربی آوردیم بوده. بعد ما روی کارکتری که قبلا تو باشگاه بودن خیلی به شدت تعصب داشت. تعصب. آره خلاصه فرگوسن برگشت. <تصفيق> خوب United همتون و خیلی بازی خوب شروع کرد. از همون اول ده رو به مشکل انداختم. مجبور شد چند تا واکنش از اون ابر واکنش‌های خودشون نشون میده واسه اینکه گل نخوره یونایتد خب بورو ادعای خدا تو شو کن که واکنش نشون داد و اینا یعنی تو بازی وسط هفته که حالا اون می می به میرسیم بهش بگذریم نکته بولد بازی پاس گلی بود که پگبا داد که حتی گزارشگر انگلیسی میگفتش این پاس فرازمینی بود و اینکه حالا یه شوخی ما گفتیم توی اپیزود اول یا دوم بود که میگفتن این پاسه که مسی بود این به نظرم من از اون فرازمینی تر بود. حالا من اینو پاسر رو یه بار تو حرکت سریع دیدم و برام تحقیق نگاه بکنم. ولی یه کارشناسی پادکستر طرف. یه حرف قشنگی زده اون دو راجع پویگوا میگو پویگوا شبیه این قضاهاییه که باید برای اینکه دعا بمونه هی بذارش تو ماکروفه. میاری بیرون هی می‌بینی دوباره سرت میشه هی سری باید دوباره بذارش تو ماکروفه سری بفاد دعا بمونه آقای فرگوسن بود میگرفت رفته روی سشورت و آدم بشه. آره همون سشوارگی بودونام کار راه رو انجام میده. بعد یه اطلاعات غیر ضروری بهتون بدم در مورد این بازی. آقای فرد با گلی که رو پاس گل فرازمینی پگ بازد زد 500مین شد که واسه یونیتت گل میزنه و یونایتد از این حس فقط تو انگلستان رکورد داره که تعداد های مختلفی که واسش گل زدن تو ادوار مختلف یه چیز جالب این نونو نونو چی؟ نونو اسپریتو سانتو نونو اسپرایت؟ نمیشد ترکیب مزخرف یا اصحال بخوری نخوری آدم آدمه مربی تونه ای مربی اه خب حل جان چی شده؟ این نونو قبلا سال 2002 تا 2004 در وزبان دوم پورتو مورینیو بود بعد مورینیو هم که به شاگرد سابقش بلد نباخت ولی جلوش امتیاز دست داد این تاکتیک های مورینیو واقعا اعصاب منو خورد کرده میره گل میزنه بعد تو نیمه مربیانی که بعد جبران بکنه یا حتی بعد بیشتر گل بزنه وامیده بازی و من نمیدونم چیه این سیستم بین دو نیمه چیکار میکنید تو چی میگی اون همه یادداشت مینویسی ما یادداشت نوشتن لوئیس فانخال بدبختو مسخره میکردیم مورینیو هم کلا تو دفتر جیارد نه مثل پپ میاد بغل زمین انرژی بده به تیمش میادم که اون قیافه اخمونو میگیره بازیکن که میده انرژی منفی بده. آره دیگه اصلا بازیکن حالش بد میشه بازی نمیکنه که بعد از اون وقت میگم چی می نویسه یه نوشته هاش که معروفه قشنگ بازی با آرسنال نه بازی با چلسی بود فصل پیش بعد برد این بازی رو این یادداشت نوشت داد به ماتیچ بعد اینو هی بازیکونه چلسی ویلیام بود هی میخواست بره بخونه این چی نوشته بعد ماتیش نشون نمیداد اونم که میریخ بعد آخر بازی ماتیش تو اینستا است گذاشت که مورینیو واسش نوشته خوب بازی کردی سه روز بهت مرخصی میدم من چی می نویستون یاد داشته که تیم اینطوری بازی بردر رو وامیده من نمیدونم حالا به بحث فنی بازی که بخوایم برگردیم این خیلی کنایه آمیز بود که هافکای پرتغالیه وولز منچستر پرتغالیه من... یعنی منچستر های پرتغالی اومدن تحت تا قرار بذارن و این جای سواله که اگه این بازیکن‌ها رو منچستر چرا زودتر پیدا نکرده که تو حات افکش استفاده بکنه امروز. حالا ژاو بالا که سنش بالاست ولی آره روبن نووس الانم میتونه پیدا کنه اگه حواسش باشه. ولی الان باید پول خرج کنم واسش. این وولد شده نماینده پرتغال تو لیگ برتر رسما. آره روی پاتریسیو هم خریدان مستروزه. اصلا میدونی چی گفتم تو برنامه‌های قبلی؟ اینا خورخه مندز آوردن به عنوان مشاور بعد از اون پورتو و بازی بازیکنه که میاد مثلا یارو آخه منم عجیبه چه مثلا طرف توئه بنفیکا آقای گله تو لیگ پرتغال مثلا جزء چند تا بازی کنه خوبه معمولا لام از اونجا میره تو تیمای خوب بازی میکنن بعد میاد تو ولز. میاد دیگه پول زیاده دیگه مگه آقای فیلیپ اندرسون بالا نشد اومد هم باز وست هم رکورد باشگاهشو زده حقوق خوبی میده اون بعد باشگاه یه نسبتا داره و تو شهر لندن اخو بولز چی داره؟ شکن شون بلگی میبینید واقعا بازی ها رو؟ آره حوصله داری؟ دوست داری؟ داریم مداریم که نیبینیم گوش میدیم ببینیم چی میگن راجبش آره. این تاکتیک های مورینیو میگم واقعا داره ضعیف عمل میکنه این هفتم که آقای زیدان توی اینستاش پست گذاشته بود نزدیک دفتر منتشاست یونیتر تو لندن باید از این باج تلفن قرمز های لندن عکس گرفته بود خیلی حرف و عیز زیاده میگن اصلا لیست خرید داده باشگاه نمیدونم چیه جریان الان دیگه من خودم بدم نمی اتفاق بیفته با اینکه به عنوان یه منچ سری که به منش باشگاه پای بنده و دوست دارم داشته باشیم ولی این تعویض وسط فصل مربی شاید الان نیاز باشه شاید یه شوکی نیاز داشته باشت حالا این زیدان که گفتی یه سری هم خبر میدادن که با تیم میامی که به کام جیدان کرده توی آمریکا قرار بره, بره اونجا مربی بشه من نمیدونم الان کدوم اینا میخواد اتفاق بیفته قطعا اگه بخواد انتخاب بکنه تیم بزرگتر انتخاب میکنه من اون شناختی که از شجاعت زیدان دارم میتونه این رو انجام بده از نظر فنی نمیدونم زیدان واقعا چی کار است چون رئالش رو که نگاه میکردی انگار بیشتر حالت موتیویشنل داشت، روانی کار میکرد روی اینا انقدر خوب بازی میکردن از جنبه فنی نمیدونم عیارش چیه زیدان، ولی از نظر روحی روانی خیلی خوبه. حالا این جنبه روحی روانی که گفتی الان منچستر خیلی بهش نیاز داره. الان میبینیم سانچز اصلا داغون، 800 دقیقه گل نظر سانچز. حالا یه شوخی که من دیدم این بود که یه بازی دوستانه‌ای تو فرانسه برای پدر پلاتینی کرده بودن چون این مثلا اینکه دوست بوده با ونگر. ونگر رفته اونجا دوستانه بازی کرده. بعد ونگر یه گل زده. نشته بودن که تعداد گل ونگر تو این وقت یک سانچز سفر آره سانچز نمیشه بگی آخه جوابم نداده. چون سانچز خودشو نشون داده و اینکه اصلا آدم این که فوتبال رو دوست داره. یادم یا آدمه اون اوایل که رفته و بارسا. بازی که تموم میشد تیم میرفت سانچز میمون تو زمین تنهایی تمرین می‌کنه خودش. اصلا عشقش این کاره. این نیست که بگیم سانچز جواب نمیده یا نمیتونه بازی کنه مشکل کاملا روانیه آره خب ببین حالا میخوای بریم سراغ داستان بیرون زمین منچستر یا برو بریم. زوده؟ ببین الان توی مثلا منچستر آخر بازی که حتما در جریانی پکپ اومده بود گفته بود این منچستری ای نیست که تو را فورد بازی بکنه ما باید حمله کنیم عین زمان فرگوسن حالا این وسط سوالی که پیش میاد اینا حالا مدیرای منچستر رو میگم اینا میدونستم مورینی و چه سبکی بازی میکنه کنه؟ چرا اینا از اول آوردن که بخوان به اینجا برسن خب این پک راست میگه منم میگم این منچستر نباید اینطوری بازی کنه. یه بخش دیگه از کارشناسا میگن اگه الان فرگوسن بود پوگ با همچین رو پیدا نمی که بیاد علیه تیم صحبت کنه و یه در حالی که فرگی انداختش بیرون همین هم بود که حسمیم کسی واقعا اگه فرگوسن بود اصلا لازم نبود همچین صحبتی مطرح بشه که بخواد به اینجا برسه خب مطرح میشد دیگه مگه با دیوید بکام به مشکل نخورد بفهمید نه درسته رو... ولی هیچکس به فرگوسن نگفت ما بعد هجوم میتر بازی کنیم یه داره رویکین از کاراش انتقاد میکرد شاید تو دفاعی بود داره هم چه چی چیزی یه مقدار رویکین چون متاتیکاش موبای... باید... ف... فرگوسن تقریبا تا 2003 اینا به هم پیشم اشاره کردیم بیشتر سیستمشیم بود که فقط یه گل از حریف بیشتر بزنیم به ریال که باختن تو چمپیونز دیک از اون موقع باید سیستمش رو عوض کرد خشتو خشته اولش رو عوض کرد که یه بنای دیگه ای بسازه آره این بازی رو با فرگوسن شروع کردیم با فرگوسن هم تمامش میکنیم آخره بازی اون تایمی که به فرگیت های معروف بود تنها آمیزش این بود که تون تو تایم ویورمتون داشت حمله میکرد حالا آره جالبیش اینجاست من یه جا شنیدم میگفتن که توی اون اون آدامات که اومد تو زمین که البته این بازیکن آکادمی بارسا هم بوده قبلا اومده تو انگلیسی مدام تو برو بازی میکرد این بیشترین شوت در چارچوبو یعنی تلاش برای گلو این داشته چه بازی بوده که یه بازیکن تو اروپا تونسته کل آمار بازی تحتش رو قرار بده متاسفانه شرایط یونایتد خوب نیست بریم سراغ بازی بعدی ولش کن یونایتد رو دیگه بسه. یه بازی کلاسیک انگلیسی بازم اونایی که خودم دوست دارم خیلی آن دوست دارم جذابیت انگستان به این بازیه. بازی, بازی برلیو بورموس خودت رو نگاه اول فکر کنید خب چه جذابیتی داره؟ جذابیتش اینه نگاه نمی کنید. نگاه نمی‌کنی. بله عمرت برفناس بازی کریستال پالاس هم نگاه نمی‌کنی. خلاصو نه. نصف اسم عمرت واقعا برفناس قبل بازی ببین. بنداشی می میگفتی خب؟ نه قبل بازی چه خبره؟ نه چیکار چ... تو این تیم من اون تیمو دوست دارم. آبردین دوست داشتی که اون تیمم دوستا اونو قبل بازی شو دوست دارم آبردین خود بازی شده بعد بازی کی دوست داری چون بعد بازی نمیدونم رئالش که چه چیزایی نمیتونه بایرن هم دوست داشته باشه که بعد بازی میرن آوجا میخورن الان اکتبر فست هم هست آره اکتوبر فست دوست داری آره جالب میشه فکر کنم قبل بازی اون خانم بیان بعد بازی رو ببینی بعد خب خیلی جذاب مرسی بپیشنهادتون کار نداریم با من داری میری الان نران نکته جالب این بازی این بود که بورموس هفته پیش چهار تا به لستر سیتی زد بعد اومد چهار تا برلی خورد خیلی این سینوسی بودن نتایج جالبه بعد این چیزی که گفتم بهش میرسیم تو همین بازی بود همه آمار به نفع بورموس بود تعداد شوته در چارچوب تعداد اتمتا یعنی اون تلاش برای حمله مالکت توپ تعداد پاسا بعد برلی فکر کنم ولوش 378 درصد مالکیت توپ داشت بعد 4 تا هم زده بود این نشون میده که اون آمارای پوشالی پاسکاری چلسی چقدر میتونه جالب نباشه این آمارا خب حالت لازم دارم ولی کافی نیستنه خب این برنوس که گفتی ببین بحث مالکیت تو خب دو تا حالت داره یه موقع هست مالکیت داری و میتونی ازش یه موقعیت بسازی یه موقع هست نه حریف نشسته عقب میگه توپ پاسخ خودتون مون این عقب باز خودمون هستیم. خیلی بازیا اینجوریه الان ما توی این فوتبال تقریبا چه پنج سال اخیر که یه سری تلاش کردن مثل مورینیو که بیان پادزهر سیستم کوردی رو پیدا بکنن این شکلی کردن فوتبالو رو. آره اینم هستش، حالا برلی هم که داره به روزای خوبش بر میگرده این درگیری ذهنی و فیزیکی که واسه لیگ اروپا داشتن تموم شد الان میتونن با تمرکز کامل کار کنن. فکر کنم، بعد نتیجه نگیرن میانه های جدول بیان. اولش نتیجه نگرفتم ولی با این بازی نشون دادن که میتونن بیان. بازی تو ورشکای کون بود؟ برلین. اما ببین تو بازی بعدی تاتنهام و برایتون. به چرا؟ خیلی بازی قشنگی بود. خیلی بازی خوبی بود. بازی بود. چه داوری خوبی داشت. چه داوری کاملاً منصفانه، درست، قوی، چه پرچمای خوبی میزد آها اون کمک داور خانم بازی رو میگی چه خانوم آره همون نکتر رو دیدی؟ بعد لفتی آور دیم؟ کمک داوری رو دیدن احتمالاً <تصفيق> تو اسکاتلند داور بیشتر خانوم به به به به به نه بگو شما تو منم آها آره برایتون داره دونه دونه با تیمای بزرگ و مهم بازی میکنه با یونایتد بازی کرد با تاتنهام بازی کرد فردا که با سیتی بازی دارن بعد این گرونتانی خریدشون یعنی جمانبخش رو بازیش نمیدن نمیخواد جا بیفته چجوری راستانش والا اینا یه خرافاتی دارن راجع بازیکنایی که از هلند میخرن طبق تجربه شون اونم اینه که میگن اینا یا مثلا فنیستروی خوب میشن یا مثلا این کلاسی و اینا بود اورتو اینا بازی میکردن خیلی افتضاح میشن الان این بد میخواد این خیلی فشار نذاره روش کم کم میخواد بیاراتش توی زمین و اون پست خیلی مهم میام استش هنوز حالا فرصتی هم آقا این بازی های سختی هم هستش اینا اینا شاید خورده بره جلوتر بازیشون آسان‌تر بشه بازی بده اینو به نظرم من موفقتر آخه به فکر ایرانی‌ها نیست بازیای برایتون با این تیما به خاطر اینکه ممکنه بازیکن جوانبخت داره پخش زنده میشه بازیاش بعد اینا هم بازیش نمیدن 200 میلیون ایرانی میشنن پای تلویزیون جوانبخت رو ببینن نمیدن حالا یه چیزی من امروز یه جا خوندم شنیدم که میگفتن که این که بازی نمیده یصدی ایرانی ها میرزن تو پیج باشگاهشون فوش میدن که آقا چرا اینو بازی نمیدید بعد پوشه هم فارسی می نویسن خب بعد اینا میرن چک میکنن اینا می چیه اینا اصلا اینا انقدر کامنت نمیگیره فیجشون میبینن می که ایرانیان دارن فوش میدن خب الان جو خراب شده اونجا میگن که این یه دو حالتی پیش اومده که شاید حتی جهان رو کم کم بذارن کنار میگن فتنه تیم خب نه آخه اینا به این جو و هواداری خیلی براشون مهمه این خراب میکنه داستانو که مثلا اگه اینا فکر میکنن شاید بازیکن ایرانی دیگه تیمایی دیگه انگلیسی دیگه نخرن چون میگن اگه ما بخریم به نمیذاریم یونیم کارت باز همین داستانه ما نمیخوایم اینجوری شروع باشه داداش آخه ببین چیز قوچان نجات که اونجا بازی میکرد الان قوچان نجات دسته پایین بود آره چارتون بود اون پخش نمیشه تو ایران ایران مثلا تو 90 آره. اخبارش چک میکنن بازی کرد گل زد نزد الان من کریم انصاری فرد هم مثلا که رفته ناتینگ ham آره اون حالا میگم دسته پوینت تر خیلی خبرساز نیست. اون سعید زتولایی هم هست، هفته ریدینگ بازی میکنه خیلی اونها دفاعشون مثل اینکه مشکل داره و امید دارن این درست بکنه اون داستانا. هرچند مربیشون فشار اس... فشارو برداره و خیلی به این فشار نیومید. فیکس بود ولی این هفته. فکر کنم 60 70 دقیقه بازی کرد. آره. کمک داور زنم که شما گفتی دیگه زخم کردین. یه کاپیتان داشتن. برایتون؟ هم کاپیتان رایتون بود این... آه هم سن فکریه آره هم ما... نه هم فکری نیست یکی دو صد بزرگتره آره این از این بازیکن کلاسیک انگلیسی‌هاست این ترویدینی کاپتانو واتفورد خیلی با روحیه و تو این سن جنگنده تنه میزنه مدافع جوونو میندازه من خیلی حال میکنم با بازیش یعنی حتی که بخواید جنبه ملیش نگاه کنی اینکه جهان بخش داره پیش یه همچین بازیکنی بازی کنی بازی میکنه تمرین میکنه میتونونه بعدا به تیملی رو هم کمک کنه حالا اینکه گفتی این از پشت که موهاشی خورده ریخته آدمو و یاده این حالا کم بر جلوتر چند سالی یه احتمالا بازی هم بکنه آدمو و یاده این بازکن قدیمی هم این نداه ماها رو از اینور شونه میکنه کش هم میارنیم و ک چ معلوم نشه. خیلی ریز داره به بابی چوارتون اشاره میکنه ها بخواستم بگم کم میخواید خرش کنی نه؟ نه اما به این سراغ تقریبا مین ایونت این هفته بازی آرسنال و اورتون بازی که آرسنال توی روز تقریبا بدش برد بازی رو و یه چیز جذابی که داشت این بود که آرسنال تو کل این فصل هیچ کلینشیتی رو تا این بازی ثبت نکرده بود این بازی ثبت کرد و بازی عجیبی هم ثبت کرد. انقدر اورتون موقعیت داشت. این دفاع‌های آرسنال به قول علی فرد نعمت دفاع خطی آرسنال خیلی داشت به اورتون حال میداد. فقط این سوپر سیوای چک بود که آرسنال داشت حالا سوای سیوای چه که یه آماری دم نوشته بودن که اولین بازیکنی اولین دروازه‌بانی شد که هزار تا سیو تو لیگه برتر داشته. این اورتون مشکلش از خودش بود بیشتر تا از چک و آرسنال باشه اینا اصلا فوروارد نوک ندارن و هی موقعیتو می آوردن. مثلا اینا یه بازیکن ای پارسال خریدم به اسم توشون یام چیزی اسمش نشیدین اسمشه اوه یه ذره اسمش سننده است آره میدونم بالاخره یا توسون توشون نمیدونم چی شو خونده میشه این با تعجب آقای حسن شاش من فکر توشون باشه آره توشونه <تصفح> اینی که میگه کجا بازی می‌کنه بازی کرد. آره جنب جامع جنبی 2002 ترکیه بازی می‌کرد بعد گذارش کرده ایرانایی میگفتن حسن ساست ولی خب حالا اینو بگذریم از بحث های شیهیش اینو پارسال نیمفرس خریدن قیمت خیلی خوبی هم رکورد ریکورد بازکنه ترکیهی رو زدن زده ترانسفر بعد این جا نه افتاده نه پارسال جا افتاد نه امسال خب بعد الان هم که این کالورد لیوینو بازی داد نشون میده که به اون اعتماد اتمینان نداره خب بعد این دیدیم دو تا موقعیت خیلی خوب خوبم اول بازی همین کالبرت لوین خراب کرد هم والکات پوشیده فراته توپ والکات فکر کنم آفساید بود آره اونم ریچارلسون زیاد موقعیت درست کرد آره یه سری میگن که حالا بذار این ریچارلسون بیاد نوک بازی کنه شاید مشکل نوک حملهشون درست شد نه حل نمیشه حتی فیل نویل میگفتش که باید اینا فوروارد بخرن اما وقتی لوکاکو رو از دست دادن واقعا نمیتونن گل بزنن یه چیزی باید بگیرن که خلعه لوکوکو جبرانشه حالا به آرسنال دیگه بخوایم بپردازیم آرسنال اوبامیان یه گل زد که البته آفسایدم بود و یه گل فوق‌العاده لاکازت قبلش زده بود که اون یعنی آرسنالی‌ها داشتن آماده می شدن که به تیم اعتراض بکنن طرفدارا یه اون گل وحشتناک رو زد و جریان برگردوند حالا یه سری ایراد می گیرن که این بازی به نفع آرسنال شد داوری ولی قبل از گل اول رو کنم یه صحنه بود پنالتی بود ساند کردن اوبامیان دوباره اومد پاس بده بازیکن حریف قشنگ با دست توپو زد داوره نگرفت حالا اون گل آفسایدی هم که زدن این به اون در خیلی در نمیشه نریه اون قبل از گل اول بود بازم میافتادن جلو دیگه بالاخره ببین اگه اورتون میدونست که فقط یکیش عقبه شاید تلاشش سمرهای دیگه ای می میداد و... وقتی دو تا خود دیگه تقریبا جنب که کاسکوزه دندشون نرم برم وار بیارم که مشکل ندارید آرسنال... فان وضعیتش بهتر میشه با وار معمولا بیشتر ضرر میکنه از داور بیشترین ضرر رو یونایتد کرده بود ولی اوکی آرسنال هم ضرر کرده یک دو سال بود بیشتر سالا یونایتد سود کرد باشه بچه دوست باشه حالا اونو بگزنیم این بریم سراغ این دو تا نکته این اوبامیان 12 تا گل زده چهار تا پاس گل داده از موقعی که جان قبلی که اومده بعد فقط صلاح انقدر تاثیرگذار بوده بیشتر از این توی لیگ برتر از اون موقع بعد آرسنال هم که گفتی گفت آرسنال تو روزی که خوب نبود برد ابرتون خوب بود نتونست تموم کنه بازی رو آرسنال خط حملش خیلی خوبه میتونن خیلی خوب استفاده بکنن میبینیم که موقعیت های خیلی خوبی هم نداشتن ولی گلو زدن ولی مشکلشون اینجاست که سخت میتونن برسونن توپو به اونجا از عقب یه خورده وضعیت خیلی گاراش میشه چیه؟ همون که گفتم ببین توی ترکیه این گه و غوینا بستگی داره مال کدوم منطقه باشه. یه خورده اینور حتی روسا با روسا تلفظا فر میکنه خیلی چیز عجيب قدیمی نگفتم ولی در حال قاراش میشه دیگه وضعیت آرسنال بز. خیلی شاید فارسی هم فکر کنم جفتش هم میگن مشکلی نداره نه من نشینم گ بگن تو فارسی بعد مثلا تو ازبکستانو تیم اسمش نصف قارشیه بهش میگن قارشی اونا اتفاقا مشکل دارن اون قارشی می نویسن قارشی میگن اصلا معلومه چی بشه بگیدین خب آره توی این وضعیت قاراش میش که گفتی من داشتم بازیو نگاه میکردم اوزیل چرا اینطوریه؟ چه جوریه؟ پاسه درست نمیده، از عقب پاس میده، سعی میکنه، پاس بلند رفرسته، بعد همون میشه زده حمله اصلا به مقصد نمیرسونه یا یعنی اینکه بازم محف بود تو جریان بازی، لوکاس توریرا خیلی تاثیرگذارتر بود. حالا توی آرسنال یه تئوری هست، میگن که وقتی اوزیل و رمزی توی این نقشی که الان هستن بازی میکنن، بعد عین اون داستان لامپارد جرارد انگلیس جورایی نقششون تو هم قاطی میشه و جفتشون خونسا میشن سر همون ترجیح میده یه تئوری هست میگه که از تاکتیکی یک شون باشه تو زمین بهتره حالا نمیدونم از بعد ماجرا رمزی یه سال قرار داشت مونده الان خبر رسید که قرار نیست تمدید بشه حالا یه بازیکن خوبه دیگه هم آرسنال قراره به خاطر این بیورزگی مدیراش که به موقع تمدید نکردن دست بده بازم اوزیلی که خیلی هم جالب نابو 600 هزار ترافتی میگیره که اصلا فاجعه است اگه رمزی مایل بشه ما خریداریم او حالا میگفتن بارسا و یونایتد و یوونتوس چلسی هم اول افس بحثش بود فقط به نظر من باید این یه تیمی بره که کسی نباشه بهش پاس گل بده دیگه بیگ بنگ میشه دوباره اتقمن بره چلسی فکر کنم لامپارت بازی در بیاره خیلی بازم خوبیه این هی فکر که تو آرسنال بازی می‌کنه واقعا الان این یعنی چی میزنه این باردی یه ذره از حته башка بالاتره باش منچستر هم خیلی بازه کنه بالاتر بوده تو این ساله حالا فلینی موقع هم به منچستر خوش دیگه <laughs> آره دیگه ایمان طرفتاییش کدومتون نیستم حقیقتا خب بریم سراغ منچستر بازی وسط هفته جام اتحادیه <laughs> میخند؟ بودی منچستر آخه آره به تیم داریک کانتی با مربیگری نه داربی میگن انگریسی ها با مربیگری لمپارد باختن بعد خلاصه نونو اولین شاگرد مورینی نبود که اومد ازش امتیاز گرفت و بردش آقای لمپاردم هم این کارو کرد حالا فصل مدرسه ها شروع شده داستان برعکسه شاگرده دارن به معلم درسیات میدن روز معلم میشه ببینیم چی میشه شاید بردیم اینارو. رو این توی روز معلم با دوتاشون بازی داریمی شما میتونیم دوستانه بندازیم بعد خیلی بعد این بازی پوگبا و مورینیا به مشکل خورده بودن بعد مورینیا پگبا رو از کاپیتان دوم بودن تیم خلش کرد از اون دوباره اومد این مساحبه عجیب غریبش رو شروع کرد تیم خودی رو خراب کرد بگه که من اون لحظهی که دیدم فیل جونز داره میره سمت نقطه پنالتی فهمیدم که کارمون خراب شده خب شد حرفیه میزنی روی تیم خراب میکنی بعد من یه سوالم روژه به گولری که داشتی اه... میفهمید کجا میزنه. آره بعد اونوری نمیرفت چرا؟ چون دقیقا فیکس همه هم مخالف رفت تو از کجا فهمیدی میفهمید؟ چون فیکس مخالف میرفت دیگه آه خیلی دیگه مخالف میگی می گفتم رشت... میگی. لیگران تو منظور مسئله من سر اون دوستمون سر کاشته حل میکنی چرا رو خب ببین این کاشته رو به زاویه موافق زد خب. اگه دیده باشی بعد سرخی و رومی رو دید که زمان دیوید بکام تو اولترافورد از این کاشته های زاویه موافق زیاد زده میشد گل میشد فکر کنم گفت بذار یه دونه دیگه هم گل بشه اجازه ده هم قانه نه آه حالا اما من الان یه فکری تو زنه اومد اونم اینه که مشکل منچستر از جایی شروع شد که به فن خال گفتش که ببین برو با سرخی و رو گفت اوکی حله میرم میخرمش وای نست دیگه سرخی و راموس این گفت سرخی و ر ر رو کشنی رفت سرخی و رومه رو خرید مشکل منچستر از اونجا شروع شد مثل این ترول که میگن سرخی و روی که سفارش میدی سرخی و <اون> بود ترولش حالا سوای اینا اون بازیکنی که کاشت زد میدونی والا چه تیمیه بله. بله از لیورپول غرزی اونجا بازی میکنه چه داد گولی داد هم, هم و اونم جالبیش اینه یکی از کسایی شد که توی اولترافورد بعد خوشحالی گل عدد پنجانشون داد با دستش مثل تورست که گل زده بود توی مثل جرال آرژال بله که بوس کرده آرژال مطابق جراد آخرین چیزی که تونست بوست بکنه همون دوربیم بودیش وقت به جام قهره نرسید اونو رو بوست کنه چمپیونزیگو بردن دیگه بالاخره لیگ تو انگلستان براشون مهمتره والا چمپیونزیگ هم خیلی پرستیج خب زیادی که یونائتد هم بردش یه سال بعد ولی خب لیورپول خیلی بیشتر برده نه یه سال بعد نه سه سال بعد برد آره ولی خب در مورد این قضیه مهم اینه که اون حرفی که سر الکسپرگسن زد درست احمدو گفتش لیورپول از تخت پادشاهیش میکشن پایین کشید پایین و هنوز لیورپول داره میذایی که قهرمانیاشو به اندازه یونایتد برسم ده. یه خورده بد شانس بودن تو این سالا مثلا تو این سیکل تیم‌ها که میرسه به جایی که تیم خوبه مثلا چند سال یه بار دقیقاً تو اون سال حریفشون خیلی خوب بوده یا لیز میخورن خودشون آره, آره. خب میخواید الان بحث منچستره لیورپول نگیم؟ همه دید. تو هم قاطی دی. دیگه آره راجی منچستر صحبت کن خب بیشتر از پناتی جونز بگو نمیگم آره. آره می خاید اون داستان اینستاگرام و استوری بگو این آره جان کیه جان تری نه قضیه جان تو تمرین ناز صدا زد عمو علی که قلندویی گفت تو همون نه این آره جانه واقعا اومد آره جان اومد چی گفت اصلا چی شد سر تمرین چرا قاطی کرد؟ این اول پوی که اومد مورینی ازش پرسید گفت چرا این چیزی که فرستادی حالا من نیدم ویدیو مثل اینکه ویدیو میخنده توش بود گزارش شده بود یا ویدیو بود که استوری کرد آره. بعد اون دریلر ها لوکشو بودن موری این لبخونی کرده بودن توی کلیپی من دیشب تو 120 دیدم حالا خودم موقعی که دیده بودم توجهم به لبخونی نبود مورینی اول ازش میپرسه که چرا اینو فرستادی تو اینستاگرام گفته بود چیو گفته بود هم ویدیویی که مثلا فرستادی این گفته بود که من چیزی نفرستادم یه حالا ویدیو معمولی فرستادم از قصد نبود چیزی نبود بعد از بازی نفرستادم بعد اون جانو صدا کرد جانو مثلا اینکه مسئول رسانه ی باشگاهه گفت اینو کی فرستاده تو اینستا گفت بعد از بازی بعد این گفتش که خب چی شد الان پوگما میگه از ام بعد گفتش که پوگوا که من از ام نفرستادم همینجیه اتفاقی شد بعد مورینیو گفتش برو بیرون بعد پایگاهه فتسر سمت بازی دیگه گفتش چی میگه این؟ <تصفح> چی می سمت رش بردی نگو چ برو بیرون برو بیرون بعد هم داستان کاپیتانی و اینا اومد <تصفح> پوی باید حالا کاری نداریم مرین یا تصمیم چیه <تصفح> یا تیمش انتی نمیگیره خودش داره تکه جووت تیم و مصمون میکنه والا به با اون قرار پارسال به از منم بودم مصئول میکردم میمدم میان الان اخراجش میکنم پولش میدم میشه می خونش می میگیره ولی بازی بعدی که میخوایم توی اتحادیه بررسی کنیم بازی چلسی و لیورپول بود چلسی که بعد اون برگردونی که از آقای استوریش خوردن کامبک زد ولی این توی این بازی جفتشون واسه همین بازی ای که با هم دارن به اون بازی های کردیشون استراحت داده بودن ولی خب بازی تقریبا تیمای دومشون هم خیلی جذاب بود آوایه ایدن هازاردم که اون گلو زد که اگه مثلا همچین گلیو مسی میزد دیگه الان طرفدارای مسی خون آورده بودن همه رو این جمله که داره میگه زیادی اغراو میزنه مسی از اینا زیاد میزنه به کی میزنه آخه به کی میزنه والا به تیمای خوب چمپیونز لیگ هم میزنه از این گلا به همون جایی مثلا میزنه که آقای نتانیاهو گفت ترقوز آباد مثلا ترقوز آباد اسپانی میره گل میزنه بعد میان گل قرن شد گل ماراد و نارو شکست داد فلان والا انگلیس هم همیشه خدا تیم پایین جدولش انقدر قوی نبودن از اسپانیا خیلی بهتر بودن آخه بدبخت و بعد بدبختر مقایسه میکنی چون پایین این تاریخ تاریخو بررسی میکنی مسی تو این برههی داره به این تیمای پایین گل میزنه که تیمای پایین انگلیس خوبن. اخه این موقعی درست بود که تو چمپیونز لیگ مثلا 40 50 تا گل می‌زد. ببین آخه به کی گل زده؟ گله قشنگش رو به آرسنال زده که حالا اونم معلومون حاله. والا به من... آخه بدبختی اینجاست تو هم مثل بقیه انگلیسی‌ها، خب، تا زمانی که یه بازیکن نه یا یه تیم انگلیسی گل بزنه قبولش ندارن. مسی رو هم رسانه انگلیس تا 2009 که اومد تو فینال به منچستر دو تا گل زد، اصلاً حسابش نمی‌کردن. یه گل زد. یه دونه زد. یه رو... نم پاس نه، پستگورو نه، تو فکر کنم ولی گل خوبی زد، جایگیریش جالب بود برای اون با انقدرش حسادت، فردا هد زد. آره دیگه. آره اینا هم مثلا بازیکن معمولی ان و یکو خیلی خفنن. هم. همون دیگه، خب؟ بعد از اونجا تازه اینا شروع کردم به احترام گذاشتن به مسی. ولی در هر حال گل هازارد خیلی فراتر از مسی بود به نظرم من. هزار... این شخصیتی که داره بنا مزجوب خودش کرده از این فرم بازیکن‌های قدیمیه فکرش تو فوتبالشه بعد نه تتو میکنه نه آرایش موی عجیب غریب میکنه نه حاشیه داره اصلا از زندگی خصوصیش با چه میدونم زن یا دوست دخترش نه عکسی هست نه فیلمی در میاد هیچ سرش تو فوتبالشه من واقعا حسرت میخورم و نداشتن همچین بازیکنی تو تیممون که این شخصیتو داره حیف این بازیکن که تو چلسیه آخه والا... هایجک کرد چلسی هم از منچستر اول آره سر هایجک های هایجک من موقعی که مساوی بدن یارو مد مدیر برنامه رو یه پول بیشتری می‌خواست منچستر نمیداد اینا دادن آره ولی اصلا هازارد دو سر الکسپرگسن خیلی روش حالا سال قبله حالا اگه مسخره‌ام نکنید آرسن ونگر داشت می‌خریده نه سب کن بذار بگم بعد مشکل اینجا بود که اینا فابریگاسو که اون سال فروختن خب روز آخر رفتن پیشنهاد دادن بعد اون موقع بند جدایش 3 میلیون یورو بود یه سال قبل از اینکه همون داستان چلسی منچستر پیش بیاد اینا برای گوتسه و آزار رفتن پیشنهاد دادن چون روزه یک دو روز مونده بود تمام بشه اونا جایگزین نمیتونستن بیارن کنسل شد و گرنه پولش همون بود خوشگل فرم پیشنهاد دادن آرسنال نه قیمتش و اونا گفته بود. یعنی عرفم اون موقع یه چیز 3 میلیون بود اینا هم دقیقاً 3 میلیون پیشنهاد دادن ولی خب به خاطر روزای آخر بودن رد شد یا دیر می من یا به سوارس چهل میلیون و یک پوند پیشنهاد میدن دن آبرو ریزی می کنن. چی اینگه حالا اونا اشتباه بود ولی اینو انصافا خوب پیشنهاد داده بودن هم گوزه هم فکر اونم سی سی و پنی میلیون پیشنهاد قیمتش همون بودن گوزه ای که تموم شد نه اون موقع خیلی رو اون موقع خوب, بود. خوب بود دو ازاره فکر کنم یازده دوازده بعد نمیم چی میشه هر چی میشه میگم مثلا مسی آلمان مسی بالکان مسی بابا مسی خودش کیه مسی ایران آره سردارازمون آره، تو آره. جام تادی هستیم الان اون منچستر سیتی که آکسفورد و سه هیچ برد اون فودن خوب بازی کرده اولین گلشو زد آره بعد الان هیچی نشده شروع کردم میگم فودن اینی استای آینده داداش آکسفورد رو زدید آکسفورد تازه اگه در سطح دانشگاهش بازی می‌کرد یه چیزی آخه آکسفورد یارو اون پشت برو رفته بالای رو صف ماشین داره بازی نگاه می‌کنه خب اون چه تیمیه جوگیر می‌شید این ببینیم الان امباپه آینده انگلستان کیه حالا <laughs> <laughs> بریم یه نکته هم فقط مونده من بگم واسه بازیای این هفته پیش رومون که خوب لیورپول چلسی و گفتیم با هم بازی دارند بریم گزارش این گل فوقالعاده آزاردم بشنویم بیایم ادامه بحثمون بکنیم <تصفيق> خب از انگلستان فقط یه نکته مونده من میخوام بگم اونم واسه بازی های هفته بعده لیورپول چلسی که گفتیم با هم بازی دارن یونایتد با وستهم بازی داره حالا خیلی بازی مهمی نیست ولی دوباره میتونه مهم بشه اگه نتیجه نگیره نکته جالب ما تاتنهامه اینا بازی کن نخریدن اول فصل الان هم دارن همین جوری از دست میدن بازی این هفتهشون با هادرزفیلده بعد نه میشل ورم هست نه هوگولوریس در عوضه ما سوامشون چیه؟ میخواید آقای مهمونه برنامه, برنامه برده در سوم ما سوام تا چقدر پول میدن؟ یه سکه میدن فکر کنم پونسدی؟ آره بذار با مدیر برنامه تماس بگیر بعد کریستیان نیست. این سرژ اوریه هم نیست حالا باز... اوریه،, اوریه اوریه نه فرانسویه یعنی ساحل آجی اون زبونش فرانسویه اوریه خونده میشه خب من گزارش جان چامپیون رو گوش کردم بابا زبون فرد ببین ام... یارو زبونشون فرانسویه بعد اسمش خب طبیعتاً به لحجه فرانسوی اون اوریه. اوریه ای او یو او, او خونده میشه اون ر آخرش هم خونده نمیشه میشه اوریه خب مرسی که تذکر دادی آره. آره اینا ندارن باز تو دوفاراس هست ولی واقعا همینجور داره بازی از دست میده بعد گواردیولا هم که به اینا میگفت تیم این دو روز دیگه هرییکنم از دست بدن دیگه باید بالا پچتینو بیاری باقالی وار کنی این سان که چند هفته پیش گفتیم رفت مدال طلا گرفت تو بازی آسیایی سربازیشو چی کار کرد یه سری هشتگ زده بودن که نجات سرباز سان <laughs> و کنم اینا کارمای داستان نجات اونه داره از یه جور دیگه ترکش میکنن نه اون چیکو میکنن اسپرت تا آخر فصل. همینجوری دارن بازیکنارو دست میدن. شاید نیم فصل است به جیبشن. والله اون ورزشگاهشون هم که دیدی شکلش از بالا چه شکلیه. آره گلاب بیروتون شبیه همونی که گلاب بیروتون. آره این آرسنالیا بعضی جور توی این پادکست های محلی اونجا تو لندن خیلی سوژه کرده بوده. خیلی خیلیوام دوست دارم اینو بریم بعد یه محلی بزنی که فقط بری خوش بله. بله. خیلی خوب بخش انگلستانمون تموم شد. روپ <تصفيق> بکشید بیرونین ورزشگاه تاتنهام من میخوام ببینم <تصفيق> بیا بریم نشونه دادن ما بریم یه استراحت بکنیم بریم ورزشگاه تاتنهامو دوستامون ببینه و بگردیم یه سر لیگ ایتالیا اونجا خب بریم سراغ لیگ ایتالیا. اولاً با اینتر شروع میکنیم خب ایتالیا تو این هفته دو تا بازی برگزار شد. اینتر جفتش هم برد. حالا از اینتر بپاییم شروع بکنیم. اینتر از برد با تاتنهام برمیگشت توی لیگ برتر، یه سری آ یعنی. این بازی هم خیلی دراماتیک بود. دقیقه 94 برزوویچ گل زد. بازم یه پایان حماسی دیگه. ولی بازم اینتر خیلی فراز به زیادی داشت. بالا پایین زیاد داشت. عملکردش خیلی جالب نبود، خیلی خوب تغذیه نمی‌کردن فوروارداشونو ولی بازم بردن. بعد توی این بازی بروزوویچ آخر بازی اومد گفتش که این نقطه عطف فصل ما میتونه باشه. کما اینکه بود، جلوتر هم هفته بعدی که وسط هفته بازی کردن، اونجا هم فیورنتینا رو دو یک بردن. اونم یه دقیقه تقریباً دقیقه هفته 80 گل زدن دو, دو یک که بازی یک بود بردن. خیلی اونم دیگه آخر خیلی اینتر داره روی نوار چی میگن روی تناب داره انگار راه میره روی اجه روی لبرس آره آره یه نشانه ای مثبتی که میشه تو این تیم دید یه خورده بهتر شدن خط دفاعشونه مثلا این آساموا که از یوونتوس اومده داره بهتر در جا میفته توی تیمشون بیشتر داره انسجام میده به خط دفاعیشون شون فعلا این مقطع رو خوب رد کردن ولی توی اکتبر تیمایی که با اینا بازی دارن ببین الان لیستشو اینجا نوشتم با میلان بازی دارن بعد باید برم با بارسا، بعد لاتسیو، جنوا و بازم بارسا. خیلی این مقطعه کلیدیه که اینتر باید توش بازی بکن. اینتر آره کاری سخته. ولی خب اون تیم بعدی شهر میلان چه شهر میلان 6 تا بازی کرده فقط یه برد داشته. جاتوزو چیکار داره میکنه اونجا؟ گفتم که این حالا یه چیز فانی بود، یه پادکست فارسی یه شوخی میکرد با قیافه و ظاهر این طرف. می گفت این قیافه از شبیه این آدماییه که محرم میرن از زندان مرخصی میگیرن بیان بیرون برن زیر علم <تصفح> قیافش هم دقت کنید میخوره همچین آدمایی آقا <تصفح> هم تو میلان رفته زیر علم مونده توش <تصفح> چیزی نداره اونجا بیاد ارائه بده من چیز فنی اته اینا من یه چیزی که شنیدم راجع بازی این میلان چون من یک دو تا بازی بیشتر ندیدم امثال ولی میگن که این کارشناسای حرفه ایشون که سریا رو ریز دنبال میکنن میگفتش که این خیلی دوست داره که خیلی مالکانه بازی بکنه، زیبا بازی کنه و اینجوری هم بازی میکنه منتها اون تمام کنندگی رو نداشتن تو اون یک سوم آخر. بعد یه سوالی که پیش میاد اینه که وقتی شما بازیکن کافی نداری چرا زور میزنی یه استایلی بازی کنی که مال نیست؟ اول باید بازیکن داشته باشی برای این پست، برای این سیستم. خب, خب بازی تمام کننده که دارن، تازه گرفتن. آره هیگوین دارم ولی خب عقب تیمشون اونقدر فانتزی نیستش که میخوام بازی بکنم. اون قیافه گتوزوری که گفتی من یاد مربی کاردیف خودم افتادم. اینم قیافش شبیه اینایی که محرم میرن دور دیگه نظری وای میسن. تدیگا رو میخورن میرن کاردیگه دیگه ای نمیکنن بعد من یه سالم کاردیف خودتون انگلیس. انگلیس مال شما مال ما نیست ولی ما مال انگلیسیم حت کارلی ولزیه میگم میخوای سکوت کن از اینجا به بعد من مخصوودم از انگلستان امپراتوری بریتانیا بود ما همون که آمریکاتی که پارش کرد هنوزم تیم المپیکش ولی با این نام میره تو میدون دیگه ح ایلندی خودشون رو خلاص کردن راحت کردن جدا مسابق بودیم میخوای یه پادکست تم مورد جدای ایلند صحبت کنیم حالا من خیلی تاریخشون نکندم در همین حد مبارزات میدونم که یه خورده یه کارایی کردن نه خیلی ریز نمیدونم که بخوام پادکس بدم باش باشه بریم سراغ یوونتوس یوونتوس چیکار؟ والا یوونتوس هفته پیش خیلی بحث راجع به اون گریه های رونالدو بود آخرش هم یه جلسه محروم شد که صرفا اون خواستن حرف داور تو اون بازی رو دیگه نگردونن که معلومه یوفا هم خیلی دیگه اینقدرم دیگه عقب نشین نمی کنه همینقدر میاد خیلی این رونالدو رو با شوخی کردن گفتن که این سی آر 7 به جای 7 وای گذاشته بودن که یعنی گریه آره یه همچین چیزی بود خیلی شوخی کردن باش که این خیلی شکننده است خیلی بچگانانه داره رفتار می‌کنه که اسکی اومده چمپیونزیک برده مثلا مقایسی کرده بودن با حرکتاش تو یورو فینالی که مثلا باخته بود یا بازیزی بازی که گریه کرده بود گفته بودن زیادی شکننده و داره بازی در میاد با سال 2008 فینال موسکو هنوز هیچی نشده رفته بود خوابیده بود داشت گریه میکرد بعد جانتری که پنالتی رو خراب کرد باز این داشت گریه میکرد موقع احتای که پایین یه ذره خندید بعد دوباره مثل اینکه که آخروازی تو رخیان گریه کرد و با ویل کنیگه چقدر گریه میکنی؟ پنالتی... لطیفه خوب. پنالتی چند تون بود خراب کرد؟ سبون می‌گفت برای همون از اون بعد رفتش پنالتی پنجم میزد یک سر حالا جالبیش اینجاست یورو 2012 که جلوی اسپانیا به پنالتی کشید رفته بود پنالتی پنجم میخواست بزنه بازی اصلا به اون پنالتی نرسید <تصفيق> <تصفيق> اونجا اصلا همه شوک مونده بود نه گریه بود نه خنده این حالتای عصبی یه حالت خنده عصبی داشتش سن نمی‌دش کار بکنه حالا یوونتوس تو این مدت دو تا برده آسون داشت که فروزینو نه رو بردن که به زور دقیقایی بیمونم ده دقیقا آخر دوتا زدن بردن که یک شم رونالدو زد چه خوشحالی هم میکرد انگار مثلا چی شده که همون تیم رومی که وضعیتش خرابه که از هفته اول تا حالا نبرده بود وسط هفته چهار تا بهش زد بعد راجبه این تیم من یه سالی دارم شما بازی این تیم فروزی بود بود آره. اینو با یوونتوس دیدی دی. من تقریبا یه ذره از بازی بارس جیرون می دیدم یه خورده از این تقریبا یه بیستقی دیدم از بود بعد خیلی جالبه چیزی که خیلی جالبه بود و رسانم خیلی بهش توجه کردن شباهت کیلینی به کاپیتان چیز بود آره انگاه با سوال دوم بود آره قشنگ فوتوکوپی هم بود آره میرور بود قشنگ چیز بود دیگه مولینارو بود این باز قدیمی های اونا که خوره ایتالیان میشناسنش. تیم هم فکر کنم یه مدت دعوت می شودن. این بازکن کن که هیچ وقت بهشون بازی نمیرسه. رسه آره اصلا من قفت بودم که اگه نفر کردنگی داشته باشه قطعا اینا رو قاطی می کنم اون عکسی که ازش گرفته بودن اون سحنه که استوب کرده بودن بعد یه خوردم چج بود زاویه ی اون عکس قشنگ می بردت تو اون فکر که اینا قشنگ اینا همه اینا همن دمابشونام خیلی شباهت خاصی تفاوت قد داشتن فقط یه خود آره, آره. اونم اکثر کج گرفته بود آره. شبیه شده بود قدش فقط قد... بحث قد شد شما نمیخوای یاد مرتسا کر بیافتی که تو آرسنال انگلیس قهوتون بازی میکنه نه نه انگلیس بود حالا شده مربی زیر 18 سال آرسنال خب باز تو انگلیس شونه آره منچسترشون که نیست من بیشتر یاد منچستریاش میفتم کلا برای هادی همه چیز به منچستر انگلیس یعنی راجب تیم فجر تهران توی دسته ندونم چندم صحبت بکنی توی ایران لیگ مثلا تهران صحبت بکنی این میگه که رویکین فلان سال این کارو شبیه فلانی کرد چیکار کنم مهمترین تیم دنیایی بالاخره اسممون هست دیگه همه جا حالا وقتی زیاد راجبه صحبت میکنم معلومه کار تو درست انجام نمیده شاید شاید خیلی درست انجام دادی. معلن که دو اولیه درست سره الان اینطوریه بچا دوست باشیم ما من بس. ساکت میشم خیلی خب بریم سراغ ادامه ایتالیا خب این هفته ناپولی هم بازم برد اول هفته برده برد راحت بازیشون راحت نبود جلوی پارما بازی داشتن پارما تو این چند هفته اومده بود به یوونتوس یه بازی خیلی سخت انجام داده بود جلویشون رو به زور باخته بود خیلی نزدیک بود که آخرای بازی یو به بازیو بازی بست اینترم که تو سنسی رو بعد از 19 سال بردن اینجا تو بد موقعی خوردن به ناپولی سه هیچ باختن حتی تو طول فصل فکر میکنم پارما موفق باشه امسال توی لالیگا میگم لالیگا سری آبه یه گل جالبی که توصیه میکنم حتما برید ببینید گل جروینیو توی پارماه که واقعا فوقلاده بود فکر کنم میگن که 8 دومت پا به توپ رفت چند نفر رو دیریب کرد یه گل ژورج وها زدتون میلان به هلاس که خیلی معروفه. آره یادمه. آره این یه با اون مقایسه کرده بودن گلشو. خب از این بازیه که بگذریم وضعیت روم رو باید یه داره روش ریز بشیم که این روزا بحث همه فوتبالیستای ایتالیایی در مورد اونه بیشتر که پارسال اونقدر درخشان بازی کردن امسال تیمشون رو نابود کردن به دست خودشون. روم اول هفته با بولونیا بازی داشت که دو هیچ باخت. بولونیا پایینه فکرم ته جدول بود. اصلا گلم فکر کنم نزده بود. که اومد دو هیچ برد. بعد بازی فکرم دروسی بود. اومده بود گفته بود که ما اینجور بازی ها رو حتی باید بدون مربی ببریم. این اصلا من نمیفهمم چه وضیعتیه که ما گرفتار شدیم. بعد ولی یه خورده که گذشت اینا یه حریف آسون اومد جلوشون. فروزینونه همون که یوونتوس اول هفته برده بودتش. چهار تا اومدن بهش زدن یه خورده دق و دلی سرش خالی کردن یکی از اون گولا رو پاسوره زد پاسوره تقریبا این همون گلی که به آتلانتا پشت پازد این اینم یه مدل دیگه بود منتهی اوزا برای پاسوره تو روم همیشه انقدر رومانتیک نبوده این دوتا گل خیلی هایلایت یعنی خیلی برجسته شده بولد شده ولی تو طول بازی خیلی به چالش خورده خیلی توی تیم بازی‌سازیش جواب نداده بعد یه نوشتایی هستش توی روم اینه که جکو سال اولش که خیلی افتضاح بود خب اینا سال دوم اسپالیتی بردش توی جلوتر نوکتر و بیشتر برش موقعیت سازی کردن و اون داستان تخریب بازی حریف رو ازش گرفتن از وظیفش و اونجوری شد که آمار گلاش خیلی رفت ولی امسال اونجوری که هیت مپای بازی بازیای رومو که دقت میکنی می‌بینی که روم میگم روم جکو مثلا میاد عقبتر وینگ اینا هیت پرست میکنه بعد دیگه خیلی موقعیت گلزنی بهش نمیرسی که بخواد گل بزنه یه نکته دیگه که در مورد روم هست اینه که این الشراوی که اون بازی کنه مصریه مصری الاصله روم این پست اصلیش مهاجم کازبه ولی تو روم دارن وینگر بازیش میدن و خیلی بازیش اف میکنه وقتی تو پست غیر تخصصی بازی میکنه حتا این فروشایی که روم امسال داشته اینا سه تا بازیکن کلیدی پارسال داشتن تو رخکنشون که دروازه‌بانشون آلیسون بود، ناینگولان بود با استروتمن، خب. که اینا که فروختن حالا آلیسون رو با اون گلر سوئدی که جایگزین کردن اون خوب بوده، اوکی بوده، خیلی نمیشه از اون نظر ارادی گرفته تیم که مثلا اگه اون بود خیلی اتفاق عجبی نمی‌افتاد اون هیچی ولی جالبیش اینجاست خود استروتمن و ناینگولان تو تیمای جدیدشون الان خیلی به تقلع افتادن و مشکل دارن مخصوص مثلا ناینگولان که تو اینتر هنوز جا نیفتاده و سرودمن هم توی مارسی هنوز خودشو نتونسته تو دل طرف جا بکنه و مثل اینکه توی بازی با لیون هم مثل اینکه پنالتی داده ازش شاکی هم خیلی بازی مهمی بود برشون حالا سوای اینا این فورواردهی ای که میان وینگ بازی میکنن خیلی باعث شده که کیفیت بازی روم بیاد پایین. و روم به این وضعیت بیفته خیلی ها؟ الان نمیدونند این سیبل انتقاداتو به طرف کی ببرن مربی منچی یا مثلا مالکای تیم که البته میشه یه جورایی همه رو مقصر دونن تو سهم مربی به نظر از همه کم تره به چیز دقت کردی هادی چی قشنگ تابلو ما نمیبینیم ما داره برای خودش میگه ما نشستیم کلا هیچی نمیگیم می میدوزه اگه اطلاعات اشتباه هم بده داده این وسزا دیگه به هرات خب نمیبینیم میخیلی ببینیم این از این, این هفته تو میبینی هایلایتش میتونم برام ببینم خودت برو هایلایتاشو ها ببین من نهایت همون لیگ اسکاتلند دارم دنبال میکنم دیگه دیگه دنبال نمیکنم والا اون بریکزیدی که انگلیس داشت طبیعیه نوینی بازیاره اونا کلا رو این به قول اون گزارشگر اصلا از اروپا برید بیرون از هر جا دوست دارید برید بیرون باز داری شروع می‌کنی من چیزی که اتفاق افتادارو به ایتالیاات برست هفته یه بعد دو سه تا بازی مهم داره بگو چیاس حالا بازی‌ها خیلی خوبه یه دونه دربی رومه که خب همیشه یه بازی مهم توی ایتالیا دربی دلا کاپیتاله به قول خودشون کاپیتال همون کپیتال خودمون تو انگلیسی بعد یه دونه هم بازی ناپولی و یوونتوسه که خب به خاطر حساسیت جدولی هم که تو این چند سال اخیر خیلی سر اسکوده توی خودشون چالش میکردن یعنی میجنگیدن که به دستش بیارن خیلی مهم شده این بازی و یه جورایی بازی فصله حالا باید ببینیم این ناپولی که فقط یه باخت داشته و سه امتیاز از یووه میتونه خودش رو برسونه یا نه من توی دربی شهر روم خیلی مایلم که لاتزیو ببره. دلیلش هم دیگه فکر کنم توی این چند قسمت بر همگان واضح شده حضور آقا سرگئی میلینکوویتاویچ که اصلا دوست دارم موفقیت این رو من ببینم. یه بار دیگه نه از اول بگم همون کاراکتری که سرگئی میلینکوویتاویچ حالا جالبیش اینجاست این موفق در بشه شما باید کیسه رو شل‌تر کنی سرش. اصلاً میلیون من ترجیح میدم این فاست منچستر 800 میلیون هزینه کنه 400 میلیون میلینکوویچ و اسمالینگو جونز هم بسد 200 می <تصفح> دیگه 400 بدی همونا میمونم سر نه دیگه 200 میلیون بده پاولو دیبالا 200 او... میلیون هم بده دو تا هری مگوایر و این دفاع ساوثامپتون که گفتم و اگه توبی آلدرویرل هم بتونیم بگیریم و یه دونه دفاع راست ممنون میشم تو رو جمع میکنی دلاشت دلاشت برای اون. قبل بازی اون مراسم قبل بازی تیم کریستال پالاس مراسم بعد بازی بایرن نمیخواه نه یونایتد به اندازه کافی جذابیت داره نمیخواد. باره دیگه سید که مورینیو نه مورینیو فکر کنم بره زیدان داره جدی میشه قضیه‌اش. بعد یه سوال دارم من جدا از همه اینا اگه ونگر بیاد منچستر چه حالی میشی میرم انگلستان و خلاصش می حتی اینه بگم سی داستان جدیش اینه که سال 2003 آره. اینا فرگوسن یه بار نزدیک بود خدافزی بکنه و موقع صحبت از ونگر بود آره. رد کرد خودش موقع ونگر خیلی خوب بود انصافا سال بعدش هم که خوب بود دیگه سال 2003-2004 بدون با خراما شدم من چانسی دقیقاً از همون اول همون سال آرسنال داشتم نگاه میکردم و بچه هم بودم مثلا ده سال اینا بود اون موقع فکر میکردم یه چیزا عادیه اینا بدون باخ رفتن راحت قهرمان شدن جامو گرفتن بردن بعد دیدم که نبا با این اصلا سال یه بار اتفاق میفته همچی چیزی نمیشه آره دیگه آره. فکر کنم اتفاق من افته. نه والا توی این فوتبال مدرن با این همه بازیایی که هی داره لیگ ملت های اروپا و نمیدونم لیگ اروپا و تورنمنت ثوم یوفا و اینا داره میاد بعید میدونم خیلی خب بریم سراغ لیگ اسپانیا ما بریم دوباره یک ریز بکنیم میاییم اسپانیا بعدش هم که بیریم سراغ این مراسم دبست فیزا. دوستان با شما این با ادامه برنامه میخوایم بریم سر وقت برنامه دبست برنامه ای که از خیلی جهات ها بسیار جذابیت داشت و خیلی حاشه مختلفی داشت و از نظر خیلی از کارشناس ها میخواستیم تونستی... انا اسپانیا رو بگیم و ببخشید تمه پخش شد خب بریم سراغ اسپانیا تو یه هفته رال و بارسا جفتشون باختن بعد یه چیزی که من فهمیدم راه شکست دادن رئال و بارسا بود. اصلا رابطه مسائل فنی نداره شکست دادن این دو تیم. خیلی راحت‌تر از این حرفاست. کافیه مارلوش رو شرط ببندم. یعنی بارسا که باخت، رئال هم یه جور باخت که حتی گلم که زد مردود شد، مارسلوش هم شد، مردود شدن در نفره بازیکن یه جور قشنگ شلبستم زمینگیر شد رئال. حالا بریم با حسین داشته باشیم لالیگا رو ببینیم چی میگه. حالا قبلش یه سوالی میگم. ترکیبی بود چرت؟ دوتاش باهم؟ جفتش با هم بود. آره حالا میدونی چند روز بود این اتفاق نیفتاده بود؟ چند روز؟ 1361 روز بود این اتفاق نیفتاده بود. یعنی <تصفيق> گئان زدی به لیگ اسپانیا با این شرطه. من معذرت میخوام میشه شما کلا شرط نبندی؟ چرا نبندم؟ وقتی میتونم روال بتیو رو شکست بدم چرا نکنم این کارو؟ رو, رو یونایتد نمیبندی اصلا. نه. رو آبردین هم میشه نبندی. آبردین این هفته با کی بازی داره؟ امیچو نمیگم که برو سرغ لیگ خوده چیکار لیگ ما من تو لیگ شما دخالت میکنم این اسم این تیمای اسکاتلند رو دیدی آره لیمینگستون کیلمارناک <تصفيق> اسماعیل آ چقدر بلده من اینا رو بلد نیستم تو چیجوری بلدی جدولشو واسه موقعی نگاهی میکنی چولبه خب برو برو لالیگا رو بگو خب این هفته بارسلون دو, دو تا بازی رو یعنی داغون کرد پنج امتیاز از 6 امتیاز رو از دست داد حالا رئاله که تو کورس نگه داشت هیچی اتلتیکو هم از اون پر چراغ خاموش رسید این الان اومده بیخ گوشه اینا دو امتیاز با اینا فاصله داره هفته های پیش از هفت امتیاز بود بحث داشتیم میکردیم که اتلتیکو نمیرسه الان خودشون رسوندن جادوی بت دیگه <تصفح> نابود کرد اینا رو حالا این اول هفته که بارسلون بازی داشت قبل اینکه اخراج بشه بازیکنشون که خیلی هم حرف عادی بود سرش یه سری میگفتن عمدی نذات یه سری میگفتن نه این بی بود اون دستش اورنجش اومد صحنه رو دیدی آره آره, آره ول شد اومد مثلا خورس صورت این میگفتن حداقل اون بازی اخراجش بعد رفت جلوتر بازی بعد از اون اصلا بازی ریخ به همین مربیشون بوسکت رو آورد عقب بغل پیکه تو خط دفاع که جای اونو پر بکنه امتیتی رو نایورد زود همین باعث شد بارسلونا اون شب خراب بکنه ولی قبلش میگفتن که حالا من بازی رو نیمه دوم چند نیمه دومشو دو بیشتری دیدم و دقیقه چهل نیمه اول دیدم و نیمه دوم دو بعد اینجوری بود که میگفتن که نیمه اول قبل اینکه اون اخراج بشه این داشت بهترین بازی فستشو انجام میداد بعد یه هم همه چی ریخ به هم باز این بازی یه شروع خوبه دیگه از مسی داشت تونست گل بزنه ولی یه بازیکنه ارگوهی که توی جیرونا بازی میکنه این تلفز درستش هم جیروناه خیرونا نیسته خیرونا به مادریدی میشه به کاتالانی که این تیمم هم مال همون ایالت کاتالونیاس همون جیرونا درسته اه اه اه اه. بعد اینا بازی برگشتون هم قرار تو آمریکا تو میامی بازی بکنن تصریب شد یعنی بالا سازمان کلید کرده برن اونجا ولی حتی رئیس فدراسیونشون هم شاکی بعد این صرف بازیکن‌ها اون اتحادیشون اونها هم خیلی شاکی بودن که این بازی داره اونجا برگزار میشه کلاً همه شاکی هستند رئال هم موزه رسمی گیره گفت ما اصلا نمیریم آمریکا بازی بکنیم و دلیلش هم اینه که یه حرف قشنگی زد سیدلو و گفتش که این پرس میخواد برند رئال رو تو آمریکا قوی بکنه به عنوان رئال بره اونجا نه به عنوان لالیگا آره این اتفاق از اون سالی افتاد که یونایتد و رئال توی آمریکا با هم بازی کردن بعد قشنگ فرهاد مجیدی استایل رئال اومد تو فوتوشاپ کرد و در حالی که در واقعیت ریال توی آمریکا همچین طرفدار نداشت فکر آره به خاطر برندسازی بیشتر البته رئال توی اون ایالت هایی چیز داره طرفدار داره که مثلا بیشتر لاتینوها اونجا میشینن مثل این همون میامی آره فلوریدا فلوریدا آره بعد حالا راجب های آماری این بازی بخوایم صحبت بکنیم اون بازیکن اوروگوه‌ای ها رو بذار بگم اون رو رفت روی تلفظ اونو رو کلا پرت اون استوانی تو تیم ملی اوروگوئه بازی میکنه خیلی بازیکن خوبیه اینجا هم خیلی پیگیر بود مثلا گل دومش خیلی جالب بود توی اون صحنه که تو بر می‌گردی از بین اونها این بازیکن میزنه گوشه خیلی گل قشنگی بود برای دروازه خالی بعد اینا تونستن داشتن می می‌بردم بازی رو که اون آخرش مساوی شد و بارسلونا حداقل نباخت تو نیوکام منتهی بحثی که پیش میاد اینه که این این جور اتفاقا که مثلا اشتباه حالا یا درست یه نفر اخراج میشه خب یه چیز عادیه تو فوتبال همه جا پیش میاد ولی خب یه بحثی یه سری مطرح میکنن که چون اینا ریال و بارسان تو برشگاه خونگی خودشون یه خورده این حالت یه قانون نانوشته است که انگار نباید کسی اخراج بشه از تیم اینا یه خورده محافظت از این تیما میشه سر همین وقتی اتفاق برعکسش میفته خیلی بحث راجبش میشه و میشه موضوع بحث همه کانال های تلویزیونی حالا بارسا اون فرمو بهتر که نکرد هیچی اومد خراب کرد به تیم جدول که فقط یک امتیاز گرفته بود از بازی اول باخت اینا یکی جلو بودن یه شوت خیلی العاده از پشمانوته زد کوتینیو یکی جلو بودن بعد کلن دند خلاص زده بودن شل کرده بودن داشتن لذتشون مردن که یه اینا شک زده شدن یکی شد بعد اینا خواستم به خودشون بیان فکر کنم یه دقیقه و 23 ثانیه بعدش گل خوردن یعنی تو فکر کنم مثلا 40 50 ثانیه خوشالی گلارو بذاری قشنگ 20 ثانیه سی ثانیه بیشتر بین دو گلی که خوردن واصل نبود بعد دیگه نه نم چی چیکار بکنن بعد سوارزم از نیمه د... یعنی بعد از اون اومد تو ولی نتونستن کار خاصی انجام بدن. البته من بازی رو دیدی شما نه یه چیزی که میتونه خیلی مهم باشه تو این بازی رو خیلی فکر میکنم مهره کلیدی بود برای اون تیمی که بار رو شکست بده پیکه بود پاسه گلی که توی بازی دوم توی گل دوم داد خیلی پاسه خوبی بود یعنی واقعا من موندم خیلی قشن انداخت بر بازی کنه حریف که بتونه دروازشون رو باز کنه حالا بازی اول افتن پیکه ستاره بازی بود آره کلم پیکه فکر میکنم که حضورش توی یونایتد کنار اِسمالین خالیه. آره جاش خالیه خیلی هم بحثش هست که شاید امسال خریداری بشه. دیگه بعد فکر کنم دفاع یونایتد ببوسیم بذاریم کنار با این واسه. من طرفدار این خرید. مش <تصفح> <تصفح> <تصفح> <باش شماریشه>؟ مشخصه. آره. بعد حالا بارسلون یه آمارای الان بهتون میگم الان اینا اولین بار بود که از تیم آخر جدول بارسلون جلو افتاده بعد عقب میفته میبازه. خب بعد یا آماره دیگه اینا با 77 درصد مالکیت توپ موقعیت کمتری درست کردن از لگانس جولوی این تیم که بازی دومشون بود تو این هفته. یعنی هم بازی با تیم تحیجد بعد اولین بار بود در سال 96 بارسان میبازه به تیم تحیجد ولی. اصلا آماره عجیب غریبیه. بعضیا میگن تاکتیک های والورده تکشیده. والا به نظرم خود بارسلون های خود تمرکز ساده حالات یه حالا ای بین حال رئالم هم اونا اونا هم خراب کردن یه حرفی که هست اینه که بازم بیشتر آدم‌ها اعتقاد دارن که ها میگن که شانس بارسلونا خیلی بیشتره برای بردن لیگ چون اونا مثلا شب بعدشون اتفاقیه مثلا یه شب پیش میاد بدن خب میبازن ولی رئال وقتی میبازه واقعا افتضاحه خب سر همین اون مال بارسلونا کمتر اتفاق میفته بیشتر خوبن. و مسی هم دارن که همیشه تو موقعی که گیر میکنن بازی در میره، اخیرا جالب بازی که تو این هفته دو تا بازی، سر همون شانس رو بیشتر به بارسلونا میدن هنوز. آره رئال که میافته رو دور باخت همینجوری میره، هی مساوی، هی باخت. یه موقع هم میافته رو دور بردن، جو مثل اون سال 22 تا برد پشت سر هم میاره. ولی خب امسال بعیده، یعنی اون رفتن رونالدو به نظر داره تحصیلای خودشون میذاره، اون شخصیت رو ندارن تو تیم. بیل دو سه هفته اول خوب بازی کرد ولی کم کم مثل این که اینکه هم داره خلاص می‌کنه. البته بذار من مخالفت کنم باها چون رئال پارسانم بیشترین امتیاز اختلاف بین رئال و بارسا بود نمیدونم تو چند چانسات 50 60 سال اخیر. خیلی اختلاف افتضاحی بود. این از اینجا که بریم روی بازی رئال، رئال هم اول هفته با اسپانیول بازی داشت، بعد جلو اسپانیول هم اومد استراحت بده، مثلا بیل کلاً بازی نداد یا مارсело هم بیرون بود فکر کنم. بعد اینا خواستن که استراد بدن که مثلا بیان جلو سویه خوب باشن بعد قبل بازی سویه هم که خب میدونستن بارسلینا باخته تموم شده بود بازی اینا قاعدتا آدم عادی میاد میگه که ببین اینا باختن بیایم نجه بگیریم ولی برکس میدید تو زمین میبینی اصلا نیمه اول افتضاح خود راست سه تا خورد و دو سه تا دیگه هم نخورد خب واقعا اصلا بسپرنگیز بود این سه چهار تا بازیه. کلیدی و چالش برنگیز فصل تا الان که اون سوپر کاب بود و این بازی با اتلتیک بیل باو ستاش هم روال افتضاه بوده و تازه بهترین عملکردشون مساوی با بیل بود که اونم زیفترین بازی بود ب... که بهترین عملکرد رو دوش داشتن حالا شنبه شم... با اتلتیک و مادرید اونو نمیدونن میخوان چیکار بکنن بعضی میگن که روال خیلی بالا پایین داشته یا خیلی خوبه یا خیلی بده و این سری نوبت خوبه است. حالا ببینیم با این تاکتیک های دفاعی که رئال داره خط دفاعش اصلا خیلی فاصله داره با خط هافکش اون وسط به قول اون یارو گفتن تریلی رد میشه اونجا خیلی فضا سازی زیاد می و یه م... مسئله ای که داره این تیم اینه که اینا لیدرشپ ندارن الان برعکس مثلا اسمایی که توی تیم هست مثلا راموس میگه خب عقب افتادین من دیریپ میکنم میام جلو خب دیپ میکنه میای جلو اون پشت حفره ایجاد میشه جا خالی میمونه کی میخواد اونا رو پوشش بده من راموسه که گفتی این فکر کنم بیشتر از فوتبال سرش گرم جاهای دیگه است توی این عکسای تیمی که میخوان اول بازی بگیرن داره شیطنت میکنه عقب جلو میشه آره شیطنت نبود <تصفيق> حالا بگذارید ولی یه چیزی حالا چند درصد توی این رال فکر میکنید مقصر مربی تیمه اصلا نقل و انتقالات تیم خیلی بحث برانگیز بود این پرز دنبال اینه که رو بگیره سر همون کل تابستون منتظر این بود که یوفا بیاد یه رأی بده اینا رو از فرپلی مثلا محکوم بکنی اینا مجبور بشن نایمار یا امباپه رو بفروشن بیاد شو بگیره لاشخوری خب اصلا خرید نکرد الانم جدیدن میشنویم که آورده پروژه باسازی برنابهورو میخواد کلید بزنه که اونم 500 600 میلیون یورو خرجشه میخوام وام بگیرم ولی خب این یه هزینه بیخودی روی تیم باب لازم نیست حالا لزوم من انجام بشه سانتاگووب بنا با تو کام سه چهار هزار نفر گنجایش داره هم الانه نمیخوان جمعیت رو زیاد بکنن چون اینجور چیز ها همون اقل شهرینات شهرداری خیلی سخته براش درست کردن اون داستان ولی اینا میخوان مدرنش بکنم اون شکل بیررونی اگه عکسشون نمیم دیده باشی یا نه این این صففین فضاییست از بالای حالت نمای خیلی جالبی داره ولی خب خرجی که میذاره روی دوش تیم قشنگ دو سه سال هزینه نقل و انتقالات ممکنه تحت تصدی قرار بده من استقبال میکنم از ساخت این ورزشگاه والا این میتونه نمیدونم اینه این این تمدنایی که یهو نابود میشن تو اوج به اون سمت ببره رئال خورده بعد برگشتن ازش سخت میشه در صورتی که اون مشته که که های روز مسابقه فکر نمیکنم خیلی تغییری بکنه با این دوستان شاید بیشتر به خاطر پرستیژ و ظاهر کلاس داستان باشه و فکر کنم پرز قصداره که این سانتیگو برنمارو رو که میخواد حالا تغییرش بده و درستش کنه بیاد حتی با حالت بیاد از ویملی یه ذره بیاد بالاتر چون الان مدرن ترین ورزشگاهی که داریم توی اروپا فیمی کنم ویملی باشه هنوز و سالهای ساله که ویملیه اینو به سازه از اون بیشتر میشه آره خیلی, خیلی بهتر میشه و بیشتر میشه به خاطر همین قضیه داره. و یه قسمتی از هزینه هم که زیاد شده به خاطر اون خونه‌های دورو اونجا اونجاست خب که اونا رضایت ندادن برای گرفتن رضایت اونا شاید 100 میلیون یوروش به خاطر اون فرق کرد میتونست کمتر باشه حالا به واسه فنی بازی برگردیم این معصومیتا هم خیلی ریال و از کرد تو این چند وقت مثلا کارواخال معصوم شد ولی اینا دفاراس ناچو رو گذاشتن حتی اون ادریو که جدید خریدان اونم خیلی خوب کار کرد جلوی اسپانیول با این حال اونم یه معصومیت جزئی دچارش شد که نتونست جلو سویو بزنه ناچو رو گذاشتن ناچو تو دفاعی خوبه ولی نمیتونه تو حمله تیمو کمک کنه سر همین تیم ناقص بود و فقط مارسلو میتونست بیاد از سمت چپ جلو اونجا یکو دو کنه حمله کمک بکنه و خب این کار دفاعی سویارو راحت تر میگیره خب شما میدید که اینا فقط از یه طرف میتونن خوب بیان جلو متو مارکسان میتونستان برن رو اون سمت سمت راست رئال اصلا بی خیال چون اصلا ناچو نمیتونه نفوذ بکنه و مارسلانو هم که دست رفت دیگه. آره مارسلان دقیقه 70 اینا تقریبا مرخص شد رئالم سه تا کرده کرد چون خیلی بد داشتن بازی می‌کردن نیمه اول. نیمه دوم خوب بود. پا به پا بود. اگه کل بازی اینجوری بازی میکردن مساوی میتونستن بگیرن. کلاًم تو این چند سال الان 4 ساله پوشدرام دارن اونجا می‌بازن. تو 6 سال اخیرم فکر کنم کلاً یه برد داشتن. اونم فکر کنم اون سالی بود که مورینیو اون سال بود دو یک بردن. حالا راجع به دبست صحبت میکنیم، این بازی اولین بازی بود که مدریچ اومد به عنوان بهترین بازی کن انتخاب شده بود. جالب اینجاست تو این چند سال اخیر این جایزه خیلی خوشیوم نبوده. سه سال اخیر که این بازی چارشنبر هم جزدش حساب میکنم، ریال باخته. سالهای پیشش هم من یادمه فیفاینر هم جایزه می‌گرفتن. میگرفتن. بیشتر بازی مثلا اول بازی بخصم تو برناباه هم بود، جایزار رو نشون میدادن دادن شانس هم از هم میخوردم به این هم می اومد یا میبرد یا مساوی میکرد اونجا کللا اصلا اون خوبی اونو زههرمال میکرد. حالا یا اینا مغرور میشن یا تمرکزشون از دست میره یا اینکه اون سفره که میکنن خستشون میکنن. حتی سفر رو خیلی نمیشه گفت چون اینا معمولا با جت اقسای می درند. خب اون هم زوریخ و لندن و ایناش خیلی دور نیست. ولی اینکه میگم فکر میکنم، به نظرم یه خورده اون ناخوشاگاه حریف رو تحریک میکنه که جدیتر باشن یه این به نظرم می‌تونه یه فاکتور روانی باشه که اذیت میکنه البته میتونه یه چیز دیگه باشه، یه چیزی پیدا شده الان. حالا همین جایزه بسیگارا را جست و بحث می‌کنیم. نحسر از تو. خب تو مثلا بت می‌کنی، تیم تیمو به گل میشونی یعنی این جایزه هم داره کمک میکنه به این قضیه. من اینکه تو هم دست داشته باشی. نه، اگه تو اون دست داشتم خی... انقدر اسپانیایی انتخاب نمیشد هماري اینگلیسی انتخاب میکنید نه لزومان همه رو ولی مثلا تو این سالات همش دیدیم که بازیکنای شاغل تو لیگ اسپانیا تو این لیست رو قرار میگیرن خب اوکی اینا قهرمانی میارن ولی با در نظر گرفتن این جور جاما ما میایم چشمون رو خیلی اپ خوب لیگای دیگه میبندیم نمونهش ماجرای توپ پترو نگرفتن ریبری بود یا خیلی بازیکنه خوب تو لیگای دیگه که به خاطر همین که این بازیکنه ای اسپانیایی یا شاغل تو اسپانیا میرن جام میارن چش روی اینا بسته میشه حالا چه جامی میارن؟ اوکی لیگ قهرمان میارن نه یه لحظه خب باید جواب جامع... بده دیگه دیگه. نه چه, جا... چه جامی میارن؟ لیگ قهرمان خب, خب از اینجا مهمتر داریم مثلا تو فوتبال ولایت جام خب... ولایت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> برای ولی ها فکر کنم کارلینگ کاپ مونتر از جامعه. یه لحظه وایس دیگه دارم میگم تو هم نگو دیگه لیگ انگلیس دیگه. دیگه. خیلی با... من اصن حرف نمیزنم. خب باشه ببین چه اگه بازیکن خیلی عملکرد درخشانی داره جام نیاورده. ولی فقط میون اونایی که جام گرفتن رو در نظر میگیرن. ببین مثلا همین الان چیزو دار در داری ریبریو میگی اون سالی که اینتر ساگانام ورت حقه اسنایدر بود. که اونم نگرفت نمیخوام میگم اینا رو بیشتر تو بست بحث بکنیم بهتره تا خودش همینم اخرای بگو هر چی اینجا بگیم آره. بگو آره. بگو آره اینجا جمعش کنیم والا این جایزه ها بریم سراغ این داستان پخش جایزه ها و خوشحال کردن همه یه موردی که توش بود این بود که این رایه های جایزه های مختلف با هم دامنه‌اش فرق میکرد مثلا مال بهترین دروازبان و کارشناسی فیفا رعاید داده بودن بعد مثلا هم ورد بودن تیم متحده و داده بودن به اتحادیه بازیکنایی که جزء نیم فیفا هنچین هن؟ کل جهان نیم دیویس پنجاه دارن افراد چقدرن؟ بیست یه همچین عددی اینا عید داده بودن بعد دخیا دخیا شده بود بهترین دروازبان در صورتی که تو سه تا دروازمان برتر چیز نبود که کاندید بودن برای بهترین دروازبان جدا. آره وا اصلا جایزه پوشکاششونم من نبود چیه گل ما اصلا اون گل گل ماه نشد اون. آره حالا جالبیش اینجاست یه کارشناسی یه حرف خندید با خنده گفت اینو نه جدی که میگفت بیایید از دید تئوری توته اینو نگاه کنیم شما حساب کنید سلا تو سه نفر اول هست جا قرار نیست جایز اول اوله ببره خب بعد توی تیم منتخبم نیست خب بعد خب چیکار کنیم الان این دست خالی نره بیام پوشکاشو بهش بدیم اتا این رای دهنده های عرب که اتا من با عرب مشکلی ندارم ولی خب عین ما ایرانیان اونا هم یه جورایی یه خود آره بعد مثلا اینو جمع میشن یه هایی مثلا عین ما که تهست میان لینک پخش مورن بریم مثلا به آره. فیلانی رایی بدیم بیاد بالا اینا هم اینجوری بعد خب کشوره عرب هم دامنشون زیاده اینا میرن و رایی میدن و 38 درصد اصن اونا رو در نظر نگیری مربی مصر خیلی جالب بود سه تا بازیکن اولی که رای داد سلاح توشون نبود مسی بود رونالدو بود و مودریچ بود اخو اون چیز نیستش دیگه عرب نیستا که عرب بود احتمالاً خیلی جالب بود اصلا به صلاح رای نداد فکر کنم شاید مثلا عملکرد ضعیف صلاح تو جام جهانی هم چشونو گرفته بود بعضی هم میلاد محمدی که بهتر نبود البته یه چیزی هم <تصفح> و بعضی خب سلیقه فوتبالیشون مثلا با اینکه بازیکن خودشه میگه اون یکی بهتره و به اون بیشتر نظر داره تا اینکه بیاد مثلا بگه چون بازیکن منه حتما باید به این رای بدم و این دنیالویس چی بوده اخه تو تیم منتخبین کلا نیم رو فکر کنم کامل بازی نکرد والا اینو فکر کنم میارن اونجا شادش کنه <تص <لاحصا> <تص <واحد> من این همیشه اونجا هست بعد پارسا نمیدونم بازی رئال پاری منه با چه دقتی دیدی دی؟ یه تونلی زد آسنسیو اونجا تونل شهید دنیالبرس یه تونل اصلا سر همون گل خورد گل دومه که خوردم پاریس هست شد تو پاریس من با چه عمل کردی؟ جام جهانی هم که مستوم بود خب لیگ فرانسه هم که بدون دنیالبرس هم سالی پیش داشتم می بردن به خاطر این نبردن چه اتفاقی افتاد این انتخاب شد ما آه... تازه فکر رو اینا دنیالبرس هم خرید هرس کردم وقتی اون توماس مونیه بلژیکی بود که چی آخه دنیالبرس حال سیاست باشگاه شونه دیگه من حالا کاری ندارم ولی اگه فکری بازی میکرد فکر کنم اون یه دفعه راش و برده بودن یهو آره. رو چهجوری الان دفارس انتخاب شد تو تیم وردا دیالا حالا مراسمه دیگه ولی یه مشکلی یک معلن دارم اینه که نیمار یه حرفی راجبه زده شده من دوستان اینو قشنگ بررسی کنید این فایت از سمت آقا جوی بارتون ابلاغ شده به نیمار عزیز که حالا قبلا لطف و مهربانی داشتن نسبت به خیلی از بازیکن‌ها ولی شباهت دادن رو به کیم کاردشیان بعد نمیدونم از کجا از کدوم زاویه چه جوری نگاه کرده بهش گفته کیم کاردشیان اینو هنوز درکش نکردم فلسفهش دید. باید کشف بشه چون جوی بارتون خیلی شخصیت عمیقیه. اون سال هم من یادم میاد دماغ زلاتون رو تو بازی مسخره کرده بود آره اون دلغو بود یه حرفای میات تو توییتر واسه موقع میزنه شاخ در میاری ولی تر حرفاش واقعا به یه عرفانی این آقای جوی بارتون رزیده من خیلی دوستش دارم <تصفيق> ولی اینه که گفته به خاطر اون بیمرد بودن توجهاتی که بهش میشستی دیگه نیمار نیمار اونقدرم داغون نیست به نظرم تو جای داغونیه مثلا شما مقایسه بکنید عملکردش تو بارسلونا رو اون موقع انقدر بیخود نبود مثلا باز خودش به قول این یه اصطلاحی بود یه کارشناسه هی میکوبه نیمارو میگه این هکفشو می صورتش خوشالی میگه پارسال پس بعد از گروش بود. میگفت تو فرانسه مسکر بازی میاره ولی تو بارسلونا شما انقدر همچین داستانی نمیدیدید؟ خب، خب من این بارسلونا یه ذات تیم تر داره. پاریس محتکوده که. اون ریختن دارن هم. همونو میگم. میگم. مگه مثلاً اگه تو توی روال داشت بازی میکرد. خب، مجبور بود یه نقش بزرگ بزرگو بخواد بگیره. بعد جدی تر بود داستان. ولی تو فرانسه میبینه هم با مسکر بازی میبره. هم بدون مسکر بازی. خب چرا فان نداشته باشه؟ دانیال وزم که اونجا هست تلخکی دربار خب میدونی ببین می انتقادی که به نیمار میشه درسته همون انتقاد به پگبا هم هست این تو اگه فوتبالیستی در این سطح هستی توجهی که به تو میشه باید به خاطر فوتبالت باشه نه به خاطر مدل مود یا نه به خاطر استوریات نه به خاطر اینکه مثلا اب بغلت رد میشن میوفتی زمین گل میخوری گریه میکنی خب این اصلا در شانه فوتبالیست رده اول جهانی نیست خیلی هم انتقاد کردن استوره من آقای اریکانتون آنتونام که تو اینستاش انقدر تو تایم جامعه جهانی نیمار رو مسخره کرد یه روز اسپاگتی رو سرش یه روز یه چرمدون آورد چرخون گفت بیا این نایماره خیلی مسخرهش کرده و خب حق هم دارن فوتبالیس نباد اینطوری بشه نه نمیشه گفت حق دارن شما مثلا همه کسایی که دارن نیمار رو مسخره میکنن نیمار از خیلی جهات خوبه مثلا خواهرش خیلی خوبه نه حالا میدونی یه چیزی هست میگن رابطه نیمار و خواهرش نزدیک‌تر از خواهر برادریه ما این مساله رو همینجا مسکوت می‌داریم آره, آره. بهش توجه نمی‌کنیم بریم ادامه بس خوب خب مثلا اینکه یه ماجرای جالبی هم برای کانتت اتفاق افتاده ببینیم چی بوده آره کانت کلاً یه شخصیت خیلی جالبی داره که یه ذره خجالاتیه بعد وایس بود توی مراسم موجی میاد پیشش میگه که میدونم خجالاتی ولی خب با ما صحبت کنم بگه که چه حسی داری که اینجای این تا شروع کرده صحبت کردن، کله اوضاع شروع کردن خندیدن و دست دادن براشو اینا که از خیلی از احسانم سوژه شده رو حتا صدا گذاشتن چیزای جالبی جالبیو نشون دادن. مراسم دوستم که مودریچ برنده شد بعد از الهوش ده سال به این انتخابای رونالدو مسی پایان داد. من خیلی خوشحال شدم از این قضیه. حقشم بود واقعا سننش هم جوریه که دیگه نمیتونه. از این مقام های شخصی به دست بیاره نباطی ملیش دیگه میتونه کاری بکنه تو رعال هم امسال بره و تقریبا تموم دوران مدریج با اینکه دوران اوج کوتاهی انداشت نظر توجهی و جایزهی ولی خب اتفاق مبارکی بود دیگه حالا جالبیش اینجا از خیلی از این رسانه های ماجدی یا کاربرایی که در رعال توی توییتر و اینا بارسا رو مزقره می اون روزنامه هاشون رو که اون موقعی که 2012 این رو خرید تیچ می که می چه خبره چه میلیون برای یه هافکی که بدترین خریده تا بعد حالا بعدا جالبیش اینجاست همین بدترین خرید تبدیل شد به یکی از نقطه های یعنی ارکانی که ریال روش تکیه کرد و قهرمانی ها شاورد نیم فصل اولشون دیر اومد خوب نبود سال اولش ولی از اون مخصوصا اون بازیشون با منچستر که اون دو تا گل فوق العاده رو زد از یه گل زد جا... یه گل زد از پشت بال من... انقدر قشنگور بود به من ده تا گل چند بار نگاش کردید آره اون خیلی اون اونم قبول داریم که نامردی داور بود که اون اخراج ناحق و والا من نمیدونم به چی میگید حق ببین با کف پا نانی اومده رو کمر یعنی پهلوی م... میشه برنامه اینجا تموم کنی من همین رو روش بزنم ببینید نه طرفتار آبردین اسکاتلند داره میگه اون ناحق بوده حتی من به این شک دارم <تصفيق> ولی بیایم روی فکت ماجرا صحبت کنیم به من کرد بعد ببین آخه من ببین قوانین داوری رب میدن کدوم کدوم تیمی با کف پا وقتی میان روی پهلوت اصلا ضربه زده نشد نانی پاشو کشید ببین میگه بعد ببین نه پاشو نکشید عکس اون داستانی که خورد پاش اونجا خورده بود و من عکسشو داشتم توی آربلوآ تو رخکن پیرنشو زده بود بالکشو گذشته بود تو پیجش قشنگ قرمز شده بود به اندازه یک کف پا شاید اون رفتن تو رخکن پپه زده اوه دیگه شما دیگه, دیگه خیلی لفت دیگه. تو دیگه یه فاکت یابو <تصفح> من هم منم اصلا دهنم خب چرا <تصفح> خیلی واقعا از اسپانیا نیست واقعا اون پرتغالیه نا اوربیلو که اسپانیاییه تیمشون که اسپانیاییه <تح> شما کلا منچستریا باختو نمیخواید قبول بکنید چرا اگه واقعا بر حق ببره مگه اون بازی که 6 تا سیتی به یونایتد زد من چیزی گفتم زد قوی‌تر بود زد برد دستش داد این باختای نزدیک سوزشش بیشتره وقتی باختایی که گلش زیاد باشه میفهمی که تیمت بده وقتی این نزدیک باشه همیشه بحث بیشتر بعد خیلی جالبه راجب این بازی داریم صحبت میکنیم تو همون بازی مصاحبه بعد بازی مورینیو گفت تیمی که حقش بود بره بالا نرفت میدونی چرا چون میخواست بیاد یونایتد ببین اصلا اون نگاهی که مورینیو به نیمکت یونایتد همون بازی عاشقانه داشت میکرد قشنگ من یاد اون شبی مینداخت که توی لیگ فینال تو برنابو بود با اینتر قهرمان شد یه جوری داشت به سکوا نگاه کرد انگار سال من میام اینجا. و اینجا قهرمان میشم و سلطه بارسلونا مثلاً. حالا ببینیم مورینیو برای سال دیگه به رخکن کجا و نیمکت کجا نگاه کنه. حالا چشمش به پاریس سن بود ولی اونا اصلا یه مسیر دیگه رفتن. رفتن این مربی جوون آوردن. خدا رو شکر شاد اومد آوردین. آوردین فکر کنم جواب بده. آره چون آقا فرگوسن مربی بوده بودا. والا حالا رفتیم اسکاتلند بده من این سی بگم. جرارد هم رفته اونجا تو رنجرز مربی شده. خیلی چالش بزرگیه براش که ببینن میتونن این سلطه چند ساله سلطیک رو بشکنن یا نه. سلطه الان یعنی برندان راجرز آره؟ مثل اینکه که چند هفته از خوب نجه نگیرفته. مثل پنجم شیشون بود من یه شنیدم. شنیدم. ولی این. تیم اسم جاردو برد. حالا ولی در کل جالب نبوده. حتی در اخراج هم شاید باشه اون راجرز. راجرز من دوست داشتم. لیوه پولش خیلی غشنگ اون آخرها اصلا احمق شده بود دیوانه شده بود نمیدونم فازش رو حالا من به عنوان مهمان برنامه بگم که میتونیم این بحث رو بزنیم بعد برنامه یا چی میتونی بگی خب بزنیم برای بعد برنامه آره میتونیم این کارو بکنیم باش از خود لیگ اسپانیا چیزی مونده که بهمون بگی حالا یه چیزی که بعد میگفتم یادم رفت این داستان آندرس سیلوا بود که پارسال دوتا گل زد برای میلان امسال تا همین جای فسکر کم 6 تا بازی بوده 6 تا گل زده و الان صدر جدول گلزناست این نشون میده چقدر میلان مریزه میلان که یا شاید هم بگیم لالیگا آسونه نه خب ببین به رئال گل زده بعد راول هم قوی نیست رئال قوی نیست نمیگم اگه رئال قوی نیست کجا قویه مثلا 3 تا حالا آبردین حالا نمیگم اونو بعد بعدا سوء استفاده میکنی ببین تو تاریخ رئالم برده ها اونو اصلا نمی‌گم که گفتی بعد ما رئالو بردی آخه اون موقع فرگوسن بود بعد اون موقع رئالم یه چیز بود انقدر به اروپایی از این اون موقع سالای خوبش نبود تو اون سالا یه لول پایینتر حتی اون موقع جام یوفا خیلی تر بود شما حساب بکنید که اگه فقط قهرمان‌ها الان اتچ الان چهارتا تیم میرن عموگه فکر کن شما فقط ها میرفتن با تیم دوم سوم اگه بر جام یوفا ببین چی میشه اونجوری بود اون سال تو اون تورنمنت بود بیشتر راه خیلی خوب برنامه‌ی هفتمون تمومه من میخوام تشکر کنم از همه کسایی که ما رو تو ساختن این پادکست کمک میکنن خواهش میکنم شما رو نمیخواستم بگم صدا بردار اون آقای میلاد پاشایی اسپانسر قوی این پادکس آقای علی جمالی اینا یه سریع دوستانی که توی مراب کمک میکنن که اسمشون زیاده شاید یادم بره بعضیاشونو همه رو نمیگم اصلا کلا نمیگم هفته دیگه ام میام سراغتون تا برنامه, برنامه بعد بالا سرشون میریم با سرشون تا برنامه بعد شما رو به همراه مهمان برنامهمون به خدا میسپریم خدا خدا یار نگر.